می‌کنم به همه شنوندگان عزیز پادکست فوتبالم ما توی این پادکست فوتبالی هر هفته لیگای معتبر اروپایی از جمله لیگ برتر انگلستان، لالیگا و سری آ رو زیر ذره‌بین خودمون می‌بریم و انتصاباتشون رو تحلیل میکنیم. اپیزود 811 رو شروع کنیم. ما هفته پیش پادکست ندادیم به خاطر اینکه فیفا دی ای بود. گذاشتیم هم تموم شه که بتونیم توی این آخر هفته در مورد بازی ملی هم یه صحبت کنیم و هفته 8م لیگا هم که داشته باشیم. اتفاقای جالب توی این هفته زیاد افتاد بخصوص توی انگلیس، توی ایتالیا که خب همه تیم خوبال روم و لاتسیو و اینتر و میلان و یوونتوس و ناپولی که بردن. توی اسپانیام کم و اتفاقای معمول افتاد دیگه ریال باخت بارسا هم که مساوی کرد نکوزش معموله؟ تو هفته اخیر معمول بوده دیگه خب حالا بریم از انگلستان شروع کنیم بازیارو رو ببینیم که چی پیش میاد این هفته انگلیس رو از بازی واتفورد برموز شروع کنیم نظرت چیه من اصلا از اینجور بازی ها خوشم نیدارد. هر این هفته بعد از مدت ها تونستم کل بازی ها رو خلاصشونو ببینم یه چیزایی میتونم در موردشون بگم ببین و برمنس بعد اون داستانی که از یونایتد باخت کلا تعطیل شد یعنی امیدشون رو حد دست دادن چه اتفاقی افتاد براشون کلا زدن جاده خاکی این هفته که چهار هیچ از برمنس بورموس یه رکورد جالب داره که این فاست 6 تا پنالتی فقط گل زده همش دارن پنالتی میگیرن براش بازیکنای تکنیکی زیاد دارن به خاطر همینه آره خیلی سرعتین میدوام میرن بالاخره اونم که من یادم میاد گزارشگر اول بازی گفتش که جفتشون بهترین شروع فاستشون تو لیگ برتر رو داشتن توی تاریخشون ولی خب بورموس مثلا که به این روندش داره بیشتر ادامه میده دیگه بورموس یه بازی بود فکر کنم اخراج دادن بعد گل خوردن باز آره، آره. شدن آره باختن آره. یعنی باختن آره و الان دومین خط حمله رو بعد از سیتی داره یعنی قشنگ ترپ میده یعنی جالب بود برامون ریکشن اون ری مربی باتفورد بود آخره بازی قبول کرد که اشتباه کرده آره خیلی خوب بودش اون رو دوست دارم اونجور ریاکشن ها بعضی مربی ها هستش ب... یا به بقیه میندازن یا اصلا میخوان که نبینن ام. حالا یا ادا در میارن یا واقعا نمیبینن نمیدونم گواردیولا یا یه حرکت همین هفته زداد الان بهش میرسیم بازی سیتی و ام. لیورپول این برمموس فکر این بازیکن‌های جلویش مثل رایان فریزر که دو هفته پیش گفتم یا این فورواردشون کینگ و اینا آخر فصل فکر کنم باشن تیمای بزرگ اصلا دندون تیز کردن فوقش برای نیمکت اونا خوب باشه برای تیمای یه لول بالاتر خوبه اونا مثلا انا... تیمای انا همین رای... تو اون کاتگوری الان همین رایان فریزر راحت اگه بتونه مثلا بال راست بازی کنه میتونه به داد یونایتد بخوره چون واقعا بازیکن درستیه با اینکه مثلا از اون اسمای بزرگ و معروف و اینا نیستش اما خیلی به تیم کمک میکنه بازیکن کارگرطوریه حالا تو بحث اسپانیا بیشتر راجب این صحبت ولی یه فرقی هست بین بازیکن خوب با بازیکن عالی <تصفيق> بازیکن‌های خوب مثلا میتونن چند هفته خیلی خوب باشن اینا همون عالی باشن ولی تو طول فصلشون نمیتونن اونو توقع و برابرده بکنن بعد فشار تماشاگرای تیمای بزرگ روشون تاثیر می‌ذاره همون چند تا بازی خوبم دیگه نمیتونن خوب باشن آره اینم آره. ریسکش هست یه خورده این ریسکیه سر همین میگن که قمار میکنن رو بازیکن‌ها و اینا خیلی همه این ذهنیتو ندارن که بتونن اون قدم بزرگو بردارن برن تو اون بهتر آره بازیکن قدیمیتر بیشتر این خاصیت رو داشتند تو همین حالا دهه گذشته مثلا ما یکی رو داشتیم مثل پارچیسون که بازیکن فوق معمولی بود اما قشنگ دلیور میکرد کاری که ازش میخواست انجام میداد و اون هایجکه چی بود؟ اسم بازیکان چلسی؟ کدوم جانوبی میکل آها هایزک جانوبی میکل قشنگ جبران کردش اوه اوبی میکل من کلا درک نکردم این چهجوری هایزک بوده اون عجب میش اس پاس خودش خیلی کار هم نمی کرد بالاخره آخه دیده نمیشن اینا آره آره ولی دقت میکردی نمیدونم دیده بودی بازیشو توی نیجریه یا نه آره، آره. اونجا یه پادوپا میزد میومد جلو اصلا یه نفر دیگه بوده اینه اون هایدریان آره. تیم ملی ایران خب بود. اون موقع که تو تیم قبلش بازی میکردم همین آزادی عملو داشتم که مثلا چش فرگسون گرفتارش از اونورم قبل نشسته ویشنه شاستروت ببینه فرگوسن کی خوشش میاد داره ورش بیاره ولی خب تو چلسی خودش حر ورزه فش با توجه مربیایی که حالا سبک دفاعی بیشتر اونمال میکنن تغییر کردش تو لیون بود قبلا آره اونجا خیلی یکی از تیم‌های بازیکن ساز عجیب غریب اروپا سین دیو بعد این هفته بازی با حال دیگه هم که بود اورتون و لستر سیتی بود یه چیز جالب این افته جیمی واردیه واقعا این چهار شناسیش داره از دست میره دوسته تا به خیلی خوب خراب کرد دیدم مثلا من خودم بازی زنده شو اومدم تلویزیون روشن کردم نیم ساعت آخرش رو دیدم که دقیقا یه چنده بعدشون مورگانم اخراج شد لستر هم خوب بازی میکرد ولی خب تموم میکردن کارو خب مورگانم واقعا هم سنش رفته بالا سرعت سابقه رو نداره همین که زوجش آقای مگو سرعت جالبی نداره بعد مورگان خب جا میمونه پی خطا میکنه یه اخراج میشه فکر کنم دو هفته پیش هم یه اخراج شد هفته قبل ات دست داد یه هفته هم بازی کرد دوباره هم اخراج شد حالا هفته بعدم با آرسنال بازی دارن نیستش آره آرسنال که بالا پیش میرسیم فکر کنم لستر رو یه درس حسابی بهش بده بعد از اونم بالا واردی افت کرده این جیمز مادیسون اومده بالا که دعوت هم شد به ملی انگلستان. خیلی من دوستش دارم اگه یه ذره قدر رو بدونه نمیگم مثلا میشونه در حد کلاس جهانی ظاهر بشه اما میتونه مثلا سیگورسون انگلستان باشه آخه این باز برمیگردیم به اون بحث این تگا حالا سیگورسون چی هست که این میخواد سیگورسون, سیگورسون چی آره ببین سیگورسون چیه؟ سیگورسون. قبول دارم خوب. آخری رابطه... گول خوبی هم زدت تو این بازی آره رابطه خط هافبک و خط حملست دیگه و خوب این رو انجام میده شوتاش خوبه خود جیمز مدیسون هم کاشته خوب میزنه شوت خوب میزنه بعد این فکر بازی سازی رو داره قشنگ از ماجد انگلیسیه که با فکر بازی میکنه فکر کنم بهترین بازی کنه در پایین انگلیس شد باشه آره آره حالا آره. آره. آره. تیم الی ببینیم چیکار میکنه احتمالاً واردی که حالا خداحافظی کرد ام. احتمال داره که مثلا بتونه حتی مدیسون جای راشوردام بگیره چون راشفورد خیلی فرازان و داره بازی میکنه نیست واسش بگه ده اینا بازی, ده بازی میکنه ولی خب راشورد بیشتر وینگر اینا تیم گرسافت کی سر جاش بازی میکنه اون هم هست آره. نه آره دو یک شد گل سیگورتسون هم خب فوقلاده بود حالا این هم توی کانال تلگراممون ببینید لذت ببرید میکنم خدمتی که سوانسی به ایورتون کرد همین سقوطش بود که باعث شد سیگورتسون بره اونور بر. از این گلای سی که پشت محوطه میزنه آماری هم که زده بودم وسط بازی این بود که بیشترین گل خارج از محوطه رو زده اون فکر کنم از 2010 اردوی لیگ برتر از اون موقع تا الان هیچکس انقدر گل نزد زده 40 خورده گل زده 19 تاش پشت محوطه خیلی آماره عجیب غریبیه آره بعد این هفته بازی دیگه که داشتیم تاتنهام و کاردیف بود خیلی نکته جذابی نداشت فقط این بود که چون کاردیف ما رو باخته بود یا مثلا یه مساوی داره فکر کنم تاتن آم دو تا مساوی دارن برد بورد ندارن ها یادم نمیاد برده باشن تاتن خیلی دسته کم گرفته بودش و خوبم بازی نکرد فکر میکنم مثلا راحت ببره راحت نمبرد یه خورده کاردیف اذیتش کرد البته خب اینکه حالا تاتن آم میخواد تو هجوم ضعیف تر بود آخه اینم در نظر بگیریم نه از بازی با بارسلونا اومده بودم بالاخره هر چند بازم باختن ولی بلاخره بازی سنگینیه جلوی اون بود. بازی مزید. سنگینی بود خب کریستین الکسر هم نداشتن، این اومده بود پست دفاعی شده بود. یه خورده معادلات زمین به هم ریخته بود. ولی خب کلا چیز خاصی نداشتیم بازی. یه دونه اخراجش خیلی سر صدا کرد. اونم من دیدم کارشناسا بیشترشون میگفتن درسته این مربی کاردیف آقای وارناک خیلی سر بی بیخوردوزی بلند کرده بود. حالا این چی بود پلی کردی گلوری گلور من یونایتد بود خیلی پاتکست بیترفان هست یعنی ترکوندی تو چه خبرته بردیم خوب بابا نیوکاسل ته جدول شانس سقوطه چته کامبک سدیم باشه کامبک ولی... فرگوسنی بود خشن آخه نباید به کامبک میرسید نباید میرسید آره، آره. آره. اتفاقا یه آماری من از مارتین تایلر یه سوتون آمار داره تو اسکای زده بود که این یکی از منچستری ترین کارهای منچستره این کامبک زدن آره. دو هیچ خب عددش یادم واسه کنم نه تا بود یه چی چیزی بود تیمایی دیگه مثلا سه تا اینا بیشتر نزدن خیلی بعد خیلی تیم ها مثلا دو تا خیلی تیم ها بعضی تیم ها مثلا کامبک نزدن آره. آمار منچستری بود ولی خب نباید اینجوری میشد که اینجوری بشه آخه ببین اصلا نیمه اول واقعا تعطیل بودن همه ببین چی بود که تو همون بیست سقیه اول الیک باا کشید بیرون هم چرا اریک ای باایی اونقدر خراب میکنه این فصل فصل پیش خیلی خوب بوده ای میکنه یا مثلا اتاداق قطش رو خراب میکنه تعویزش کرد بعد اه... من بازی رو نمی دیدم. داشتم بازی رو حال میدم گفتم چیز بعد اینکه خلاصه رو دیدم گفتم شاید حتما مصوم یا تیکی کشیده تاکتیکی بود پس سوتی داد تقصیر اشیان هم بود گلا ولی به این وسط بایی چیز شد دیگه حالا یه چیزی که بخوام بگم حال نمی‌ام داوری بنفعه ولی تو این بازی خوش بودن اون فکر یه پنالتی باید میشد موقعی که دو هیچ بود آره، اگه پنالتی, پنالتی میشد خب همچین چیزی نمی‌دید دخیام چار... سه چهار تا سیو خوب کرد تو نیمه اول آره. قشن نجات داد ممکن بود نتیجه خیلی تر از رقم بخوره بعدا تو نیمه دوم پگبارو آورد عقب یه پست بعد جواب داد تو نیمه اول خود با داشت جاگینگ می کرد. یعنی اصلا تو پرس هیچ نقش خاصی نداشت داشت علکی مثلا حالت گرم کردنی داشت می دوید. اون گل دوم بود کنم آره. بو او دستیار جامون اصلا پرس نکرد که راحت گل خوردم ولی آره خب نیمه دوم قشنگ متحول شد این, این اگه بخواد بازی کنه خیلی بازی کنه فوقلاده ایه چون مثلا پاسه گلی هم که مارسیال تو مایه های آره اگه تو امویه‌ای که به فرد پاس داد ولی در نوع خودش خیلی واسه کله تمیزی بود آخه این یه سری بازیگونا هست ببین دو مدل بازیگونه از ذهن روانی داریم که ریاکشن نشون میدن به مربی یه سریشون هست یه تحقیقی هم بود یه مصندید نشون میده جالب بود راجع به این یه مصند آمریکایی بود مثلا یکیش بود که مربی هی فوش میداد به بازیگونه بسکتبال بودن هی پوشدارن پرتاب میکرد یکیش بود با فوش بهتر پرتاوار مینداخت اون یکی بود نه باید مثلا تشویقش میکردی که آقا چیزی نشده مثلا بنداز بهتر مهم میشه بیشتر بازیکن ها مثلا اکثرشون با اون قسمت بعد ماجرا بهتر عمل میکنه ولی پوگبات اون تیم نیست لوسه آره یه خورده لوسه ولی خب وقتی صد و پول منیوم پول میدی باید توششو تحمل کنی و بخوای بتعششش تغییر کن تغییر بده این چه وضعشه مثل اینونه به مثلا به ریکییم به یکم لطیف باش خ سری رو نمیه برای دوش هم نمیشه کاری کرد این اصلا با اینکه پراتتون نیایی دوم این بازی خیلی خوب بود و اصلا به قول دوستان قلب تپنده تیم بود و تیم راه هداخت بردیم دوباره که رفتن تو تعطیرات ملی باز رفی مدل مو عوض کرد باز زاره رفت رو حساب من اصلا دوست دارم می کچلش کنم مودلموس آره آقا شما که اصلا خود منچستری این چیزا رو ایندا خوندی آقای دیوید بکام هر افته یه مودلموسه چی شد آخرش بالاخره کاش خود تو صورتش خدا افس میدونم ولی بالاخره میگه منچستری بود که این کار کرد تو انگلیس بود هم که دیگه فرگوسن هم میگه پگبا اون عقل داره با 8 هزار پوند فروختش به یوونتوس دیگه والا فرگوسن هم والا یه چیز میشه بحث تاریخی که البته همش تئوریه نمیشه مثلا گفت کاملا اینجوری میشه ولی خیلی مربی‌ها اگه مثلا الان بودن شاید نمتونستان اینقدر دراز مربیگری بکنن خود ونگر یا فرگوسن که دیگه اینا خدای این سیستم بودن بالاخره جمع میکردن حالا هر کی تو خودش به نسبت اون بودجه و منابعی که داره اگه الان بودن با این داستان شبکه اجتماعی ها خب مسلما عمرشون کوتاه‌تر هم میشد همین آرسنال ها هم میبینیم مثلا این پارسال کلا خسته شده بودن از دست ونگر و این هم نبود بخون لرج بکنن و دیگه نمیکشیدنش آره تحملش نمیكرد یا خسته کننده شده بود تاکتیکاش شد این آره شبکه‌های اجتماعی الان این بلای جون فوتبال شده طرف ولش میکنه میره استوری میذاره ولش میکنه میره تویت میکنه همین مگه بنجامین مندی نبود گواردیولا گیر داده بود آقا چرا انقد توییتر میری و این داستانا اونم بالاخره بر... یه جوری کرد گواردیولا مندی رو احتمال من هست میذارم تو باشگاه بزرگ شاید چند سال دیگه یه مدیر تر برای های اجتماعی مدیریت <تصفيق> این داستانات هر تیمی اضافه بکنه که یا حتی دو بندهی قراردادشون یه چیزایی اضافه بکنن که یه این محتواشو مدیریت کنن بهتره. این بتر. خیلی هوشمندانه تره. آره حالا از مورینیا داشتیم میگفتیم که این حرفایی که در مورد دفاع وسطاش زده از اول فصل حالا حالا این تعویض اریک بوی شاملش میشه، خیلی اعتماد بنفسی دفاعی رو آورده پایین. یعنی میگه وقتی حالا نداریم تو مدافع وسط میخوای منم قبول دارم این دفاع وسط ها جونز و اسمالینگ و لیندلوفو چه میدونم حتی بغلا یانگ و والنسیا و اینا نیستن که تو بتونی باهاشون تایتل بیاری قبول اوکی اما تو با همین کادر فصل پیش کمترین گل خورده رو داشتی و بیشترین کلیشیت و اینکه این همه بیای بکوبی تو سرشون کار درستین نیست چون همینا بودن دیگه جلشون هم ماتیچ بازی میکرد حالا تو الان فردم اضافه کردی میتونه و تکنیکش بیشتر اونجوری زمین رو جمع کنه. پس چرا این فصل انقدر اینا دارن بد بازی میکنن؟ یعنی هم مسئله اعتماد به نفس رو تو خرابش کردی دیگه مشخصه. خود آخر مدیریت منابع هم خوب نبوده. شما ببین مثلا این بوجی ای که سر الکسیس رو یا خود همین لوکاکو فکر هشتاد 80 میلیون یورو خریده بودنش. 75 میلیون لوکاکو. فکر کنم بنده اضافه حالا به هشتاد فکر می برسه. خوبم گول زد. بعد اونقدر رو خط هملات زرمایی گذاری میکنی در صورتی که مثلا خیلی هم حجومی بازی نمیکنی و خط هم خیلی کارایی اصلیشون نداره از این مثلا خط دفات مثلا لخت مونده همینجوری این هم میشه ایراد گرفت خود مورینیو یا اون دالبرته باز کنه خیده نه دالو دالو آها آه با ما باز کنه این ترقاتی این آره. دالوت دالوتو تیش خونده نمیشه دالو دالو آره پرتغالی پرتغالی این مثلا ندیدم این چی جوریه سطحش میتونه بیاد مثلا تیم اولو آره، کمک کنه فکر کنم بازی که یه بازی من بازی کرد جمی... بازی رسمی آره ج... یا جلو جوری یانگ بویز بود یا تو این چه جوری چیز بود جله تیم لامپارد دربی آه یا داربی کانتی کانت خیلی خوب نیست گفتنش ولی خب گفتیم دیگه تو این یکی این دو تا بازی کرده یا یادم نیست چه جوری بازی کرد بر خلاف وارنسی ها یه پاس گل داد دفاع چپ نبود نگه نه دفاع, آره دفاع, راسته. دفاع راسته. خب. این به نظر من آینده روشنی داره الان تا خب تو نقل و انتقالات نیمفه هست الان میگن که مورینی داره چند نفر پیگیری میکنه حتی رفته بود بازی سربستان رو نگاه کنه که احتمالا برای آقا رفته بود ببینه <تصفيق> بعد یکی دو تا دفاع وسط هست این ناتان آکر برنموس هستش که اونو من شنیدم جدیدن به تاتنهام لینک شده به تاتنام لینک شده متولد دو تا دفاع وسط داره مگه اینکه واقعا الان تو همین نیم فصل بش ازشون توبی رو خرید که اونا برن اونو بخرن که بازی انتخاب خوبی نیست همین آکر بهتره الان آخه چند تا تیم تو اروپا هستن مثل بایرن مثل رئال یا بارسا دفاع وسطاشون کمه اونا هم دنبال این داستانن یه ای خورده رقابت سنگینی و مطمئنا اگه مورینیو توی منچست بمونه بعید میدونم بازیکنی اونا رو به منچست ترجیح بده یعنی ترجیح نده خب آخه یه مسئله اینه یه مسئله اینه که شاید مثلا خود بازیکن ترجیح بده توی انگلستان بمونه اگه بخواد آه. بمونه خب قطعا انتخابش تیمه بزرگتریه بعد یه مبحثی اومده بودن گفته بودن که احتمالا مثل ماجره های دیوید بکام که وقتی که لیگ آمریکا تمام می‌شد نیم فصل اروپا از لس آنجلس می اومد میلان الان هم حرفش هست که میلان می‌خواد زلاتان رو برگردونه <میلان> بعد همین هفت در مورد یونایتد هم هست چون زلاتان سه چهار پیش مصاحبه کرده بود گفته بود که اینا منو فروختن یعنی من افسران آمریکا من حاضر بودم بدون دستمز حتی واسه یونایتد بازی کنم و اینکه بالاخره یه جورایی پدر معنویش مورینیوام اینجاست احتمال داره که زلاتان برگردن این فصل حالا یه چیزی بگم الان بنظر بر میسن برگشتن زلاتان فکر می‌کنی کمک کنه حداقل اینه که حتی جنازه زلاتان از نظر روحی به تیم کمک میکنه. آخه همین بازی ما دیدیم که مشکل یونایتد حجومی نیست خب دیدیم که اگه مثلا بازیکناشون بهترین این توانشون بذارن و حتی این بازی یه جوری خاصی هم بود چون دیگه مورینیو میدونسه که به بازه کار تمون نه مثلا اینکه 20 ثانیه قبل بازی مدیرای تیم بهش تکست دادن گفتن نه جابت مطمئن اوکی نگران نباش و این داستانا ام. ولی خب از نظر مطبوعاتی و سوشال باز می مدیا می آره ببین مثلا اگه میباختن شاید اون فشار میومد شاید آره. از اونایی که غیر قابل انتظار بود اینو میخواستم بگم که این یه بازی خاصی بود همه مهاجما رو ریخت تو زمین نمیشد که از قبل برنامیزی کرده چون اگه از قبل بود با سیستم اولیه‌اش بود اون میبود که بره تو زمین سر همون و اینکه اینا نشون داد که اینا مهاجمای های کافی رو دارن مشکل چیز دیگه است از عقب ساخته نمیشه بازی زلاتان باید و الان هم مشکلشون تو دفاع خودت هم گفتی پس اومدن زلاتان کمکی به مشکل هستی نمیشه نه نم به مشکل هستین نمیگه من از در روحی میتونه شارش کنه تیمو و این چه مثلا یه سری گلایی که حالا دوست عزیز راشفورد نمیزنه و زلاتان قشنگ میزنه یه مشکلی بود داخل میگفتن که اگه زلاتان بیاد چون مثلا آدم مورینیو حساب میشه استلاحا شاید یه سری بازی که موزهشون مثلا هنوز هم خیلی زد مورینی نیست بازم برن تو تیم آنتی مورینیوها اه. تو رخکن که بگن اینم مثلا اومده جاسوسی ما رو بکنه بعد رخگن بشه مثلا زلاتان و بقیه زلاتان و ماتیچ و بقیه حالا آره هره. حالا باید دوش... باززار حداقلان یعنی تو عاقیت اوخه من فکر نمیکن این داستان تو یونایتد باشه یعنی همین کامبک نشون داد که اینا میتونن واقعا یکتل باشن و اون ماجره های چلسی هنوز تو یونایتد اتفاق نیفتاده من این بازی که دیدم به خصوص نیمه اول ضعیفش و این تفاوت تو نیمه دوم بیشتر ذهنم رفت سمت این که نه اینا واقعا مشکلشون شخص مورینیا نیست. مشکلشون روحی تو خودشونه و مورینیا میتونه با یه اصلاح رفتاری تو خودش یا آوردن یه روان شناس تو تیم این داستان رو حل کنه. حالا یه بحثی راجع به سطح زلاتان هست. خود این امریکایی ها که مثلا یه چند یه پادکستی از گوش میدنم دوتاشون تو آمریکا زندگی میکنن. یکشون که کامل آمریکایی. می گفت همون اونایی که مثلا فوتبال حرفه فوتبال اروپا راجع راجبش خیلی صحبت میکنن خود اونها مثلا میخوان سطح دیگه MLS رو مقایسه بکنن میگن این MLS در سطح چمپیونشیپ انگلیسه که البته دست دوم قویه تو اروپا میشه گفت ترین سطح دو فوتبال اروپا است ولی نشون میده که خب فرق میکنه الان رونی هم میبینیم اونجا خوبه ولی تو دیگه برتر دست و پا میزد خیلی جالب نبود از وقتی رونی رفته دیسی یونایتد کللا نتایجشون تغییر کرده آخه من یه چیزی میشینم این کارشناسشون صحبت میکردن راجب فوتبال امریکا میگفتش که این تمریناتو رو خیلی جدی گرفته بعد اونجوری نیست که لش کنه اونجا مثلا بره همینجوری برای تعطیلات رفته باشه نه رفته اونجا جدی بازی کنه بعد سر همین چون جدی تمرین و خب بقیه‌ام نمیتونن میبینن که طرف جدی اینا هم خودشونو می‌کشن بالا بعد همه بهتر شدن. روحیهشون هم بهتر شده اینا رسیدن به جایگاه پلی‌آف که حتی شانس داشتن حتی تو پلی‌آف هم میگن که اینا شانس قهرمانی دارن الان احتمال داره تیمشون ناجی خوبی بگیرن. ناجی واقعا تاثیرش اونجا نشون داد. شاید همون اون سطح ها تو این سن براش مناسب باشه نتونسه اون روند خودش رو حفظ بکنه از وقتی که کریس رفت دیگه در مورد یونایتت فکر کنم صحبتی نیست به جز این که فردایی که شنبه باشه بازی با چلسیه تو خونه چلسیه و اصلا نگاه چی بگم من یه آمانی هم دقیقه پیش که داشتم میامدم نگاه میکردم مثل این که تعداد بازی های لیگه برتریه مورینیو توی چلسی و یونایتد با هم مساويه یه چیزی حدود 84 تا بازی بود که اصلا ریت بوردش تو چلسی 6 تا خورده ای برد اینجا 42 تا 40 چند تا خورده ای مثلا اینجا 20 تا مثلا... وردی تقریبا فرق می اینجا ریت بوردش از همه بیشتر بوده دیگه تو لیگ برتر منظورت چیه یعنی یه آماری داشتم میخونم که ریت بورد مورینیو توی نمیدونم 3 سال اولش یا هر چی از حتی فرگوسن هم بیشتر بوده آخه سه سال اول بعد فرمت جدید بخوایی ساب کنید آره, آره آخه تیمی که داشت داشت می ساختش آره. مقایسه درستی نیست بندن ولی خب تیمی که این گرفت توی چلسی عجیب غریب بود مثلا من یادمه رئال مادرید 2009 که وام گرفت مثلا بازی پون گرفت 250 میلیون یورو خرید کرد خ 1 120 میلیون هم بازکنش و فروختتون روبه نو سایده روه او چه نفریکن. خب مثلا با صد7 میلیون یورو سرمایه گذاری تونست اون تیم رو بنیان گذاری کنه که تونستم به اینجا بن اومال تازه 2009۴ پنج ها، چلسی من یادم یکی دو تا تابستون یا یه تابستون بود صد و میلیون یورو خالص سرمایهگذاری کرد اصلا هرچی ماهچی هر هرچی دیدیم مثلا هر بازیکنی خوبی بود مثلا دیگه فرانسه که قدرتی بودن آره میتونستم یهع انگلیس ای سیN نمیدونم فلان دروگ با کی بود مثلا هی فرد چلسی آقا گفت اینه چه خبره حتی هیچ کی فکر نمیگه همون سال اول و ولی خب خوب بودن جمع وجود کرد که تو رختکنشون بود اینو بادششون مثل اون پیتر چک جانتری تری لمپارد به قول اون یارو گفتنی اون ستون فقرات تیم اصلا یه چیز عجیبی بود جانتری هم که فکر کنم همین هفته پیش بود که کلا دیگه فوتبال گذاش کنار الان بازیکنای انگلیسی که خود ضعیف بازی میکنن باید بیشتر مراقب فضای خونهشون باشن جان جانتری الان وقتش آزاده قشنگ فعلا لیگ برتریام احساس امنیت کنن چون تو استون ویلای دسته پایین امیدوار باشن نجات دیگه برتن جان دیگه خیلی خب بریم سراغ بازی بعدی اما بریم سراغ یکی از دربیه های شهر لندن فولام و آرسنال اولا که آقای شر... شرلر رو میخوام بگم که به قول سرهنگ اون یه گلی که زد از نعمت دفاع خطی آرسنال و اون بودنشون استفاده کرد ولی خب هیچ کار دیگه نتونستن بکنند فولامیا خیلی هم اصلا میگن این بازی اوبامیان خیلی خوب بود یه سری میگن میتاریان خوب بود ولی تا زمانی که ایوو ایوبی ایوبی آره تا وقتی که این تو زمین بود خیلی خوب داشت بازی میکرد اصلا فکر نمی‌تنم همین بازی کنی باشه میدونسم تکنیکی و سرعتی وینس نه اینجوری این حالا جالبیش اینجاست توی ردایش نی انگلیس بازی کرده بعد همین آقای ساوت گیت که زیر 21 سالو گرفت اینو دعوت نکرد بعد رفت بزرگ سالان که وی میدونسه بازم دعوت نمیشه رفت تیم ملی نیجریه رو انتخاب کرد بعد الان فکر میکنم انگلیسیا یه چند سال هم به بگذره بیشتر احساس میکنن که یه همچین بازیکنی هست هر باز مثلا هرچند بازیکن خوبی دارم مثلا استلینگ و راشفورد و اینا دارن ولی الان چند سالشه ایو ایو بی ایو بی؟, آی بی فکر کنم 22 سه خیلی سن خاصی نداره بعد این یه بازی بود که بالاخره میشد توش بازی آرسنال رو نگاه کرد و دونه دونه بازیکنان میشد گفت که همه خوب بودن یه نفر رو نمیشد جدا کرد بگیم این خراب کرد بقیه خوب بود تیمی خوب بودن آره، آره. و یکی دلیلش نه که هیچ میدیا پرشری روشون نیست یعنی اینا خب تا وقتی ونگر بود هیچی نمیشدن بعد الانم که آقای امری اومده کسی انتظار ازشون نداره مثل فشاری که رو مورینیو هست فشاری که الان گواردیولا داره احساس میکنه فشاری که روی کلوب هست برای تکرار همه فشاری که تا رو صلاح هست اینا ندارن اون فشار رو آخه باید ببینیم چی دادیم به اینا که بخوایم فشار بذاریم روشون مثلا مثلا آرسنال امسال فکر کنم 70 میلیون یورو یا پوند یادم نیست دقیقا کدوم واحد مالی بود خرچ کرده نت بوده یعنی رو کم بکنیم از خریداش خب با این خرج شما باید فقط به تافور نگاه بکنی اونم تاپور الان حالا ساله پیش که ونگر تاپور می آورد اون موقع چهار تا تیم نهایتاً پنج تا تیم رقابت می شش هفت تا تیم برای تافور دارن می جنگن خب یه خیلی سختتر شده نصد دیدیم که خود ونگر هم دو سال آخرش تافور نتونست بیاره پنجم و ششم شد حالا گفتی من یه برنامه گوش می‌کردم مال این طرفدارای لوکال این آرسنال بود تو لندن یک شون بود میگفت من یه رفیق فولامی دارم اون به من زنگ زده بود میگفتش که من دقیقا از همینی میترشیدم که شما سر ما آوردین اون بحث اول فصلم گفتم این متد آلی میگم چیز امری اسمش موام شویار بود دوستش یالگری به آرسنال م... بعدم نمیومد ولی امری هم من راضی کردم خودش فعلا این اه... متدش این که خیلی آنالیز میکنه تیم حریفو و تاکتیکشو با اون میچینه بعضی مربیا هستن مثل مثلا خود ونگر یا گواردیولا بیشتر تمرکزشون رو تیم خودشونه که اونو بهتر بچینن میگن که مثلا ما اگه اینو خوب به کافی بچینیم اون خودش عمل میکنه نتیجه میاد ولی این خیلی آنالیز میکنه و از کانالای کناری که فولام خیلی ضربه پذیر بود از همونجا بهشون ضربه زد و داغونشون کرد. آره ما دو نوع مربی ریاکشنی داریم. یه نوعش مثل امریه که این قبل بازی ریکشن نشون میده به تیم حریف. یه سریاشون مثل مورینیو. اینا وای میسن اول ببین اصلا تو نیمه حریف تو نیمه اول حریف چی کار میخواد بکنه. نیمه دومشون رو با اون سیت میکنه یعنی اکثرا مورینیو تو نیمه مربع یا نیمه دوم خوب بازی کرده این یعنی حتی اگه بازی رو باخته نتیجه تنها نیمه دومش خوب بوده ولی مثلا الان این سیستمی که امری داره و یا مثلا ما میبینیم که اول بازی ترکیبی که میچینه بر اساس نقطه ضعفای تیم روبروشه تعویضایی هم که میکنه خوبه یعنی رمزیه که آورد تو که هیچی او بامیانو آوردی تو بعد اوزیل که اصلا بازیش نداشت فکر کنم مصونیت داره آره کمردرد داشت برای این بازی مصون من هیچ وقت تو هیچ سطحی از اوزیل خوشم نمیاد چه توی تیم ملی آلمان چه توی رئال مادرید و چه توی الان آرسنال هیچ وقت بازیش خوشم نمیاد چون یه بازیکنیه که بگیر نگیر داره جل... توی بازیه مهم جلوی تیمای قوی معمولا محو میشه جوراتیمای ضعیف خوبه که خب اوکی بلا خیلی خیلیا میتونن جوراتیمای ضعیف خوب باشن و یه سری توی بازی های بزرگ مثلا نگاه میکنم قشنگ دقیق میشم روش پاسایی که میده اثر رفه تکلیفه پاس میده بعد خودش نمیاد ادامه بده کارو پاس میده وای میزه یا پاس میده ایمری میره یه میو میره پشت یه بازیکن دیگه قایم میشه بهش پاس ندن یعنی این گم شدنش توی زمین توی بازی‌های بزرگ یه بخش بزرگی شونه خالی کردنای خودشه این نیست که بگیم مثلا تیم حریف و, و مهار کرده بودن این خودش می‌رقایم میشه آره یه خورده اینجوری هست ولی به نظر من خورده سیاه‌تر از چیزی که یه ذره خاکی سری به نظرم داستانش حالا تو بازی بزرگ بیشترش آره ولی در کل بیشتر بازی بدون توپش جالب نیست بازی با توپش خوبه دوندگیش هم خوبه ولی من خودمم این انتقاد بهش دارم که دوندگیش موثر نیست مثلا توپولو میده چهل پنجم دنبال بازی کنه میاد ولی اونم مثلا جلوتر از این چندتر و اونم هم پاسشو میدهینی و نمی آره دویددن این تاثیر چیزی نداره حالا اون عضیل که تو بازی نبود اونو ازش بگذریم این بازی آرون نزی اومد توی بازی و یه گلزون چند دقیقه خیلی کوتاه بعد از ورودش یه گل فوق العاده زدن میخوای صدای گزارش این گلو پخش کنیم بریم بشیم حالا تصویرش چ کهم گزارشی توی گروه تو کانال عرفیل آره ت... چیزیش رو متاه که تاثیر متارک شده داشت آره گیفشه چیزی میکنیماصلا فیلمش هم میتونیم یه دور دیگه من خودم خیلی حال کردم ما این گلای آرسنال مثلا دوسه تا بود فصلای پیش یه دونه دو س... دو تا فکر کنم آقای ویلشر اینجوری زد. نه، یه دوش ویلشر بود یکی سرسی بود آروسیش کی بود آره اونم هم چهوای کنه با حالی بود؟ اون خیلی خوب بود لاسب بعد شانسی مصومیت عش بوده اون اصلا مثارت بهش می گفته مخش کار میچک خیلی خوب بود. آره، بریم اون بشنویم بیایم Tewobi coming off and Ramsey on, soon to be the proud father of twins, but uh, he's on alert for that still. Here's Cessignon. That's a good ball. Shirley in behind Hector Bierin. Just couldn't stay on his feet as he turned. Ramsey to Lacazette. Ramsey neatly done. Lacazette onto Hector Bierin. Whoa! Here's Ramsey. now Mkhitaryan and now Obama Yang and Ramsey oh what an absolutely brilliant goal fantastic finish to round off a brilliant move Fulham one, Arsenal 3 with a piece of collective genius Aaron Ramsey has only been on the pitch for a few seconds right at the heart of it and right on the end of it حالا از یه سمتی من نگاه میکردم واقعا الان این مربی که فولام داره آقای یوکانوویچ آره. این اصلا جالب نیست و احتمال داره که تو همین هفته های پیشه رو اینا اخراج کنن و یه جایگزین بیارن براش ولی خب برعکس اون داستان الان امری با اینکه فکر نمی کردم انقدر خوب بازی کنه حالا که این بازی آسون بش خورده دو تا بازی سختون اول داشت که قشنی واداد ولی بعد اون الان 9 تا برد پوستر هم تو همه تورنمنت‌ها آورده. این الان داره خوب کار میکنه اگه بتونه روندش رو ادامه بده، شاید یه موفقیتش توی آرسنال به دست بیاره حتی احتمال لیگ اروپا بردنش هست اگه بتونه اپس تیمای قوی که اونجا هستن مثل چه میلان و لاتزیو من میلان و بر بیاد. قوی حساب نمیکنم الان. این میلان به نظرم در حد آرسنال نیست. پارسال که آرسنال بد بود میلانو برد. هرچند اون میلان به نظرم خیلی تر از میلان پارسال نیست فقط فورواردنکش خوب شده دیگه آره ولی خب دفاعشون ضعیفند بونولچی هم اونجا جواب ندادخه آره آره کلا با تیم چیزی بود یه ای جمع شده بود استایلش خیلی پیوسته و به هم مربوط نبود حالا این امری یه ذره قبلتر به آنالیزشو اینا صحبت کردیم امسال اکثر بازی مثلا نیمه اولش مشابه بوده خب به جز اون یک دو تا بازی اول که چیز شد بازی خاصی بود نیمه دوم اینا نتیجه ها اکثره مثلا تو نیمه اول من یادم یه آماری بود میگفت اگه مثلا نجا نیمه اول رساب بکنیم آرسنال وسجد ولینا بود ده هون و نیمه دوم مثلا جز دو تای اول بود حالا یه چیز آماری من یادم رفته بود هفته پیش بگم آرسنال پارسال یه آمار عجیب غریبی رقم زد میشکا کرد یه بین 19 تا بازی خارج از خونه رو یه دونه برد نداشتم او او او. خیلی فاجعه بود من اصلا همه. باورم نمیشودم همچی چیزی رو حالا این مقطعی که گفتی بازیاش به نسبت آسون بود درسته آره بازیاش آسون بود نمیشه مثلا بسش مثلا خیلی رویا پردازی کرد ولی از یه طرف میشه گفت که خب بالاخره بازیایی که باید ببره رو برده و این خب چیز خوبیه, خوبیه. هیچکس ناراحت نمیشه از این داستان بعد این هفته هم اه... که میاد که با لستر سیتی بازی دارن گفتم آره اون ورگ... مورگان نیستش, مورگان نیستش. واردی هم که خوب به آرسنال گول میزد اوف کرده اون کلان به تاپ سیکس خوب گل میزنه آره حالا یه چیز دیگه حالا آره بشه لستر که فکر نکنم بتونه این کارو بکنه فولم تو این بازی جلوی آرسنال خیلی های لاین بازی می‌کرد کلان مدافعاش حتی تا خط وسط رد میشدن بعد دفاع چپ و راستشم که کلان می‌رفتن جلو عقبا نمیومدن دفاع خیلی فاجعه آره. بود آرسنال خوب استفاده کرد آره. مون این قضیه میتونه به تیمای دیگه یاد بده که جلوه آرسنال بیان اتوبوس پارک کنن و ببینیم امرین میتونه پس اوتوبوس های انگلیسی بر بیاد یا نه والا بعضی تیما هم تا همیانانش هم, هم اتوبوسی بازی کردن و اون وست خیلی دفاعی بازی میکرد زده دمله میزد و آرسنال دسته شانس ها بازی رو بردش ولی خب حالا باید ببینیم چی میشه دستر هم که چیز جالبش اینه که اون, مربیش اون کلوت پول بازیکن ونگر بوده توی موناکو و قبلا شاگرده اون بوده که الان توی لستر داره مربیگری میکنه اون هم فصل پیش خیلی بد کار نکرداری این فصل حتی لستر اگه به این نتایش ضعیفش ادامه بده اون جایگاهش میتونه خیلی خرابتر از این حرفا بشه الان جدوت چندو من میدونی؟ الان نگاه میکنم یه دقیقه بایستا خیلیاص هم به نظرم خیلی نمیشه ازش انتظار داشتم اون و سط های جدول مثل هفت شتم مثل دهم چیز عجیبی نیست همون بین هفتم تا نهمینا نه به نظرم رود خوبیه و احتما هم بیا پایین تر مثلا در حد 13 تا 15 وای سرگه بخواد به این روند ادامه بده یا مثلا واردیه نتونونه گلزنی کنه چون به هر حال بخواین نخواه امید اول گلزنیشون واردیه. من خیلی منتظر بودم اون اینهنات رو برندی باز خودش درست بکنه به یه جایی برسه بنظرم فعلا هنوز چیزی ازش ندیدم تنها کاری که هینوسو کرد اون توپی بود که از دست از پای آره. الیسون کشید بیرون آره. اینو من یادم اولین بار جایی دیدم که جام جهانی نمیدونم جوانان یا نو جوانان بود نمیدونم زیر 16 بود فکر کنم که برگزار شد اینا ایرانو هست کردن فکر کنم ایرانم تو یک هشتم چهار تا زدن اینم فکر کنم اونجا گل زده بوده دو تا یا یکی اینا گل زده بود خیلی بهترین بازیکن کنه تورنمنت هم شده بود اون سال که منچستر سیتی اومد خریدش این مهمان برنامه که الان بود نمیدونم کجاست نه اومده امروز هفته فکر جای دیگه مهمونی الان به نظرم تو این همه وقت از کجا میاری جام جهانی زیر 16 سال رو نگاه می نه دیگه اون بازی ایران بود بعد ایران کلا فکر کنم رد سنیاش دو بار رفتن که اونم با علی دوستیمهر بوده یه بارم قبل از اون بود با اون تیم کابرزایینا رفته بودم بالا کابرزایی رستی گفتی این مصومیتش خوب شد تو بازی این هفته کلوب بروژ روی توی لیست هستش آره. اعتمانم بازی کنم هم آسونه من نگاه می کردم به برد کلوب بروش یک و پنج دهم هم بود اون تیم پنج و چلو پنج اسم تیمه هم استاند بود واستاند بود یه هم چیزی بود یه جایی درم نوشته ب <تصفيق> اما بریم سر مین ایونت این هفته چون بخواستم یه سی بگم راجع به اون چیزه نبیم تیم بروخه که گفتی خب. اینا میدونی که مالکیشون ایرانیه آره بعد یکشون هم هست ایجنت دو تا داداشن بعد یه نشون هست مشتبا بیاد حالا من توی برنامه خارجی گوشون کردم راجعه اینا صحبت میگرم شانس آوردیم مثلا خیلی یارو بلد نبود مثلا تلفظ اسم اینو گفت مثلا این موجی مثلا چیز می‌کنه این موگی گفت اونجا موگی با یاد مثلا اینجوری گفت اینا مثلا بعد ری دی دیگه ریخ پلیس ریخته اینا رو جمع کرده مربی شون رو بردن شارلو ها بودن فکر کنم اینا مثلا کل و کردن چیکار کردن آره نه داور خریدن ایجنت مثلا یه وضعیتیه کل بعد لیگ ملجیک کاسپ پاکسازی کنه اینا گنده ترین تارگت بودن برای ایناسا یه چیزی هم راجع به آرسنال بگم ببندیمش اینه که گفتن نوتابورگ پسرام آوردن اینا سه سال بود همچین چیزی نداشتن و اینم یکی از بهترین شروع های لیگشونه حالا سوای بازی ترنمنت های دیگه یکی از بهترین شروع های لیگشونه فکر نکنم تا الان توی این مقطع فش اصلا هیچ وقت 18 امتیاز سالان آورده باشن و شاید اگه مثلا اون بازی حالا سیتی رو بد میبختم ولی با چلسی اگه خوش شانس تر بودن یا با دقتتر بودن الانشا جاشون بهتر بود شود گفتم این سراغ مین ایونت چون که این بازی چلسی و ساتمتون خیلی اهمیت خاصی نداشت من چیز تا اون بازی تا دو هیچش نگاه کردم دیگه گفتم تموم شد با شدم رفتم دیگه فقط این که الان هازارد این آماری که به جا گذاشته میشه گفت بهترین بازی بهترین آمار بین بازیکن‌های اروپایی بوده و حتی آقای ساری هم میگه این الان بهترین بازیکن اروپا است حتی خودش هنوز کامل پتانسیل های خودش رو نمیدونونه و نمیدونه چی میتونه بشه فکر کنم دیگه الان آزار تو سند 27 سالگی چیز خاصی بیشتر از این نتونه بشه چون کمتر بازی کنی است که بالای 24 پنج سال بیشتر شکوفا بشه ذهنیتشون میشه کرد که خب به نظر مربی خوبی گیرش افتاده منطقه ها الان دوباره اومده مصاحبه کرده راجب به بچگیش که رال بوده میخواد بره اونجا چرا ول نمیکنه اینا؟ بعد خودش گفته روال آره. که کاری نداره بعد به نظرم اگه اینو امسال تابسون می خریدن رئال الان وضعیتش این نبود ولی همچنان صحبت احتمال داره که بازم نره چون سارجی گفته بود نگرش میدارم تو چلسی حالا فعلا که تمدید نکرده گفته من نمیتونم من این رویام نبگم باید ببینیم چی میشه در زمستون گفته نمیرم باید تابستون ببینیم چی میشه که بستگی داره البته یه چیزام بگم این گری بیل وضعیتش جالب نیست یعنی بازم هم معصوم و اینا میشه احتمال داره اینو بفروشن که احتمالا با اون پول دوباره مثلا هزار دو بگیرن بعیدسون دوستان خب اونم سنش بالاس هزار هازار ساری میگفتش ذهنیت هزار اینه که واسه لذت بردن فوتبال بازی میکنه واسه بردن بازی نمیکنه فکر کنم الان تو این سن که دیگه بیشتر از این قرار نیست اوج بگیره همون بر رئال با زاراگوزا اینا بازی کنه لذت بردن براش بهتره حالا اینجا که تیک انداختی ازت رد میشه خیلی نمیخوابت بپرم <تصفيق> ولی به نظر حالا تو راال مثلا ته اثال تیم تیمای ضعف لالیگا بهتر شدن حالا ت جاران میبینیم دیگه جدوللو همون داستان لذته هست هم آدمایی برنده ایتون رو قختکن هستنتون میتونن ذهنی از برای تو لیگ بهتر آلانان بترکنن حداقل خیلی خب بریم بازی لیورپول و سیتی که گدیلو گفته بود لیورپول توی آنفیلد شاید قوی ترین تیم جهانه اینا خیلی وقت هم بودن اونجا چیزای که به کلینچیت هم نداشتن حتی اونجا مثلا فکر کنم 20 3 سال بودش 30 30 و چند 31 سال بود کلینشیت نکرده بودن اصلا بورداشون هم مثلا 20 سال یه بار اونجا میبرن بازی که حالا سف سف شد برای تماشایی که میخواست بازی زیبا و پرگل ببینه جالب نبود اما نظر تاکتیکی خیلی قوی بود خود گوردیولا که به قول اون دوستمون یه مستر کلاس مثلا اونجا اجرا کرد اینطوری بود که برخلاف کل بازیاش تو این فصل دفاع چپ و راستاش انقدر نفوذ نمی‌کردن و مندیه گذشته گلشول گذشت عقب مندی اگر نبود لیورپول راحت برده بازی رو انقدر از صلاح و غیره توب گیری کرد مندی که حتی به نظر من کاندید کاندیدای میدونستی کاندید یعنی خر کاندیدا یعنی اون نامزد آره کاندیدای بهترین بازیکن زمین بود به نظر من مندی بعد از اونم لیورپول یه همچین کاریو کرد که کلاب اومد اون ترنت الکساندر آرنولد رو گذاشت بیرون و جوگومز رو گذاشت دفاع بعد این آقای فنداک که حالا جایگاش مشخصه این لاورن رو برداشت گذاشت تو بعد جالب چی بود آخر جام جهانی لاورن که با تیم کرواسی برمیگشت یه بادی ناخته بود تو گالاش میگو من بهترین دفاع وسط جهانم بعد چی مصرف کرده بود بناسرت این دونم کارشناس‌ها اونایی زمانی خیلی سوژه غنده شده بود بین کارشناسا مخصوصا بعضی جا که راجع دفاع لیورپول صحبت میکردن گفتن کلوب نباید خیلی ناراحت باشه خب بالاخره به تن این دفعه داره جول ماتیپو چرا نمیذاره خب ماتیپ که از لورن بهتره نمیدونم شاید ذهنیت همون پررو بودن رو ترجیح داده به آروم بودن ماتیپ به خاطر اینه که ماتیپو فنده که خود شبیه هم بازی میکنن ترجیح میده که یه نفر با مشخصات متفاوتیو بذاره بغل دست ویرجیل این بازی خود لیورپول هم مثلا خیلی پرس آنچنانی نمیکرد خیلی صحناتون آنالیز بی بی سی هم میشد دید اینه که مثلا اینا میتونستن بلم پرس کنن توپو بگیرن ولی خب پشتشون خالی میشد سه آره. همون ترجیح دادن همون عقب وایسن سلام بازی یه ایستا بود خیلی ایراد گرفتم به فرمینو که ادرسونو خیلی پرس نمیکرد خب نمیشه به که حتما مرببیش گفته که اون کار کرده خود اگه اشتباه این کار انجام داد یا تذکر میگرفت یا عوضش میکردن وقتی کام بیشتر بازی بازی میکنه طبیعتا کارش رو درست انجام دادهه خودم هم به و اعتماد دارم میدونم که کاری که بهش گفتن انجام داده این نیست که واقعا مثل آی پاگ با جدید جدید هم چیزی تیمای بزرگ بزرگدارن بهش فکر میکن ح پارسال همدید کرد تا بیست 2020۰ کنم که کوتینیو من ش... یه شایعه‌ای شینم میگفتن به بارسا پیشنهاد کرده اینو به عنوان جایگزین که الان خوب نیست بخرن ز... نظر شخصی من به نظرم بهترین جایگزین بنزما برای روال مادید مثلا همین فیرминоی خیلی حرکاتش خیلی میخوره به سیستم روال من ترجیح میدم اینه که نفرش یعنی حتی پارسال هم که تعفش بود روال محمد صلاحو بخره من دوست ندارم نه به نظرم فیرмино به درد بخورتر از صلاح برای روال. خب الان الان کار نداریم این فضل سلایه خورده افت کرده ها ولی از بیل بهتره کی؟ سلام. سلا؟ بیل که خب آره بیل و بیل بازی کنه خوبیه ولی به اندازه کافی بازی نمیتونه بکنه وگر نه بازی خوبیه حالا من تعجب میکنم چی جوریه قبلا که مثلا الان از ذریعه هیکلی قوی تر هم هست ولی قبلا خونی تر بود تو تاتن هم ولی خیلی بهتر بازی میکرد تو انگلیس هم بازی میکرد نمی چیه این شاید حتی بشه به سیستم تمرینی رئالم ربطش داد شاید هم نشه چون جال خیلی مظلوم نمیده الان حتی فکر کنم مودریش دیگه مودریش نمیدونم نه میتونه بازی کنه میتونه بازی کنه تو این چند وقته رئال بچانسی بوده حالا تو چیز صحبت خیلی خوب. این چی بود داستان این این شکلی که کشیدی 0 0 یه سی بگم البته به عنوان توی اسپانیا به نتیجه صرف صرف میگه نتیجه عینکی با <تصفرم> تا صرف هم <تصفرم> میذاری برایم <را> شبیه <تصفرم> شبیه هم میشه ما گردلار میخواستم بگم که پنالتیو به جای جسوس داد به مارز بزنه بعد مارز هم که یه جور زد که دیگه نیاد زمین توپه بعد آخر بازی اعتراف کرده بود که این تخصیر من بود اشتباه من بود و جبرانش میکنم خیلی جنجال شد سر این داستان بعد مونتاها رفتن آمارو چک کردن دیدن که حده همون ژسوس هم آمار همچین جالبی نداره مثلا سه تا پنالتی زده یکیش گل شده یا مثلا سیلوا کلن یه پنالتی زده اونم مال شش سال پیش بوده خراب کرده فرناندینی هم میتونه بزنه پنالتیو میدونی کایل واکر هم میتونه بزنه فرن... خیلی او میتونه فکر کردم اومد تو ذهنم چرا چرا فکر کنم رفت بیرون تو بود لی روی هم میتونه حتی برای تیم بمب با بازیکن سیتی به سانه بدن پنالتی بزنه. خب بازیکن بدی نیست که. آره ولی خب بالاخره باید یه آدم خیلی مهمتری تری باشه معمولا اونی که پنالتی میگیره آماره مارزم خیلی جالب نبود. من یه چیزی می نوشته بود که کلا آمارش روز به مثلا یه نفر است بدتر از اون آمار داره ام. بین کسایی که حداقل 10 تا پنالتی تو لیگ برتر زدن. سانه که فیس نبود ولی خب دیگه هفتده اومد تو اونم میتونست پنالتیو بزنه بعد بیرین جالب چی بود چی؟ جفت تیما سه تا نکرده، نکردن تا تحویز کردن ام. این مال بازیهایی که خب خیلی سنگینه بعد نفری که میاد تو زمین طول میکشه با ریتم بازی همخون بشه زیاد دست نمیزنن به ترکیب حالا اون سانه رو گفتی؟ یادم چند وقت پیش مثلا صحبتشام کردیم که اون ذهنیت رو بهش ایراد می‌گرفتن الان اومده مثبت برخورد کرده آره چند وقت اخیر هم تو آلمان خوب بوده هم توی سیتی تونسته دوباره جایگاه خوش رو پس بگیره این دوستام که بازی نکرد دیگه کی؟ آقای شکیری شچیریه اسمش آره اون نه اون تو این بازی این بازی که اصلا هم خونسا میکردم می‌کردم خیلی به جایی نمی‌رسید که دیگه گندهشون دیگه اون صلاح و مانه و اینا چیزا دیگه نمی‌دادنش چه من جای یورگن کلوب بودم هندرسون رو نمیذاشتم با اینکه طبقه آمار در کنار جوگومز و لوورن بهترین موزیکونای زمین بودن اگر هندرسون نبود تو بازی چون گفتم تکلیفش این با بازیش مشخص نیست هیچ نقطه روشنی نمیتونی بگی مثلا این خیلی پاسکاریش خوبه، خیلی دوندگیش خوبه، خیلی فیزیکش خوبه، چه میدونم، خیلی قدرت رهبریش خوبه، هیچ کدوم این ویژگیهاش بولد نیست. اگه به جای مثلا... ولی بازی طرف میشه گفت در کل میشه قابل قبول حسابش کرد درجه دوه خوبه. خب، من میگم اگه به جای این مثلا میومد نبی کیتا رو فیکس میذاشت یا میومد حتی کاره بیشتر دفاعی... فبی ها رو فیکس میذاشت شاید نتیجه خود تغییر می‌کرد. آخه روی کرده این بازی رو دیدیم دیگه همش خونسا کننده بود وقتی میخواستتون خونسا بازی بکنن به همون هندرسون بهتر از کیتا. کیتا بیشتر جلوه بعد وقتی میخواست بیا جلو و موقع پشتش خالی میشه و داستان چیزیگهصبحکن وقتی کلا میخواه این سیستم رو استفاده بکنی خب ابزارش هندرسونه، نه کیتا خیلی خوب میلانم فکر کنم معصوم شد تو این بازی آره میلان شد آره انقدر گفتن که این عین شرابه و چیش نمیشه اون انرژیش تو هفته... نمیخوام و اینا کلا این چند هفته که بازی لیورپول سخت بود خوابید کلا داغون شد این هفته که بازی هم میخواد انجام بشه بزن من این هفته میرسه فکر کنم نه بابا این هفته هم نیستش آمار مستوم های لیورپول من داشتم میخوندم چونه هدرستیل بازی دارن. آره خیلی مثلا اومدی آره خیلی دا داغو میگردن. سلا. لالانا که هیچی. اون که هیچی. چند که خدا وی ای چیزه اون لالانه وی ای پیه, او هم... پیه, وی آی پیه آره مال استانه. که بلش کن. میلر ماستومه. سلا ماستومه. کیتا ماستومه. مانم نا ماستومه. پنداک آره. که ماستومه. آره همهشون ماستوم میگردن. متوالی اکثرشون هم یه بازیه. بیشتر نیست. داستانشون. چیز سادیو که انگشتش شکسته دیروز دست جراح تن شاد این بازی رو نه نمیرسه این بازی رو هم دیروز آلا. تازه زیر عمل بود اومد بیرون حالا هم که همه استرینگش مشخص شاد مثلا صلاح فکر کنم دو هفته سه هفته اینا شاید نباشه اونارو طولانی تره امیدوارم برگردن سری دیگه چون با پی اس جی هم بازی دارن توی اروپا نه پی اس جی رو بازی, بازی کردن با چیز بازی دارن با ستاره سرخ این بازی اروپاشون آسونه. خب اوکی. اوکی، باش. خیلی خوب آقا بریم سراغ کدوم لیگ بریم؟ لالیگا بریم اسپانیا. اسپانیا حرفا میشه زرد. خیلی خوب. بریم اسپانیا. بریم سراغ لالیگا خب اول اپیزودم گفتم تو این هفته اتفاقای عادی لالیگا افتاد اتلاتیکو مادرید برد حتی عادی جدید به قولون مسئله انگلیسی نیو نورمال آره رئال مادرید باخت و بارسا هم که با والنسیا یک یک مساوی کرد سوی هم که دویک سلتا بیگو رو برد سوی هم داره براتون خطرناک میشه ارسهویا امسال خوب بود این هفته با بارسا بازی داره چشمای همه تو اسپانیا به این بازیه میخوای رو بارسا بت کنم <تصفح> <تصفح> ولی این بازی اصلا نمیدونم چی داستان چون از بازی ملی هم میان حالا مسی نرفته آرژانتین ولی بقیه شون مثلا کوتینیو و سوارز مثلا با کره و ژاپن و اینا بازی داشت اومدن آسیا این ور نمیدونم چقدر حالا خود سوارز خیلی هم آماده نیست ببینیم چی میشه کدوم بازی میخوایی صحبت کنیم؟ والا وضعیت تیما رو میخوایم صحبت کنم تاره تا خود بازی این چه کنم وضعیت صحبت بکنیم من این شکلاتتو بخورم آورده بودم با هم نصفش کنم ولی نصف خودتو نخور که حرف بزنیم باش نمیخوایی تو صده بردانمون نمیخوره خب یه نمیخوایی نمیخوایی خب بردانمون خب این به های من که داستان شده بود هفتای پیش من یه هفته روی راال مادید اصلا هم بت نکردم ولی مثلا که یه جور ببت کردم تا آخر فصل بمونه فکر کنم. حالا رالو من دیشب یه چیزی گوش می‌کردم مال یه برنامه هست مال سیتلوه با یه نفر یه صحبت میکنن جشون تو اسپانیا. میگفتش که بازی های امسال راالو شما می‌تونی بعضی بازی هست دین تونی حتی بهید ازشویی برگردید آره. خب بازی های امسال رااللو، بعد تو ببینی. نه، میتونی مثلا بری این خودش طرفدار مثلا سری فیلم‌های استار ترک بود. <laughs> خب میگفت سه تا اپیزود شو اسم بود. گفت میتونی این سه تا رو ببینی و هنوز رال گل نزده. <laughs> یعنی الان اون یه آماری هم خودش به جمع زده بود. میگفتش که اگه بازی مثلا وقت اضافه هم حساب بکنیم، مثلا هر بازی 90 دقیقه بیشتر حساب بکنیم اون اضافه‌ای که تو بیشتر از 7 ساعت رال گل نزده. فکر یه فقط یه آمار تو طول تاریخش بدتر از این داره مال 980ه اون تو 980ه اونم فکر کنم این بازی گل زدن از اون رد میشن این هفته با کی بازی داره ببینم یادم نیست نگاه نکردم ببین کو با لووانته بازی داره لووانته یادم اون سال اولی که اومده بود لا لیگا فکر کنم 3 4 سال پیش بود که ای بود اومد اولین بازی رو, رو بردش لیوانته کلا تیم بزرگار خوب عذیت میکنه امسال به جز بازی با سویا که تا خوردن جلو بقیه تیم‌ها جلو والنسیا خوب بودن اتلتیکو هم نمیدونم بازی کردن یا یعنی. نه حالا در کل جلو خوبه معمولا خوبه ولی حالا ات رال رال از رال مشکل رئال بدم وضعیت وضعیت‌ها یا میخوای صحبت کنیم بگو بگو از رال بخوایم شروع بکنیم رال این چند وقته حالا خود لوپتگی هم خیلی تصمیمات جالبی بازن نگرفته ولی بعد شانس هم بوده انصافا نمیشه همه چیز رو انداخت کردن اون حالا سوایی داستان مدیریتی که خریدای مناسبی نکردن براش مثلا ایسکو اومده آپاندیسش مثلا داستان شده یه ماه نیست و خب ایسکو هم میدونیم چ... که چقدر مهم بود موقعی که این تو خود اسپانیا مربی بود اون بازی های ناب اسپانیا سه چهار تا بازی دوره اینتون دو سالش میخواد جدا بکنی یکی جلو مثلا ایتالیا بود جلو آرژانتین بود که ستاره بازی ایسکو بود این چند تا بازی هم که به مشکل خورده ایسکو نبوده بعد مثلا آسنسیو خورده فرمش افت کرده که خب بالاخره بازی نیستش که هر رفته ازش انتظار بره که بازیو در بیاره گرهیت مثلا هی نیمه مصومینا بازی کرده بعد هیت مپای بنزمان رو میبینی کلا اصلا توی محاوض مثلا دوتا چاچ بیشتر نداره یا اصلا تاش نمیکنه سه چهار تا بازی بود اصلا بنزماد شوته در چهار چوب نداشت جلویه آلا... آلاوز بود دیگه این افتر آلاوز, آلاوز یه دونه شوت در چهار مثلا از اینای که مثلا شوت میزنن بسر درواز دروازوان جمع میکنه راه یه دونه اونجوری شوت زد مثلا از پشمان و جریمه اون هم بعد پاسن دادون و گرید بلبره تو محتیش شوت بزنه مثلا آمار شوتیست بنزمای خود آره رفعلا تحصیل کرده برای به اون نکته یا حتی نقطه درخشان رئال همیشه تو این سالا ها بوده امه. که هر موقع مدریش مستوم بوده یا روی فرم نبوده رئال اصلا نتونسته کاری بکنه الان مثلا میگن رونالدو رفته زور رئال کم شده ولی موقعی که رونالدو هم بود اگه مدریش نبود یا اتفاقی واسش میفتاد اون هم کاری, در... کاری بکنه و بازی در بیاره ولی یه خورده انگار اعتقاد لپگی به مودیش به اندازه مربی قبلی رال نیست هم بیشتر میکشه بیرون هم بیشتر میذاره اون یمکتتی به نسبت قبل حتی سنش هم باید در نظر گرفت. بعد مورد دیگه اینه که این خط هاافه که یه ایرادی که میشه به خود لبتگی گرفت اینه که کروس رو تو نقش عمقیتر نزدیک به خط دفاع میذاره که خب اونجا قابلیتش کم میشه و بیشتر نقطه ظرفاش بروروس پیدا میکنه تا مثلا خوبیاش. بعد خودش هم مقا... مخ... الان هم شده موقعی که میرن تیم ملی بازی کنم مثلا یه چیزایی میگن که معمولا توی باشگاهی نمیگن اونو مثلا میرن اونورتر اونجا خورد نگاه فضایی باستری احساس میکنن مثلا این پوک باین اینه بازی میکنم یه چیزهایی راحتتری میکن وحثش هم بود اه... کروس هم رفته بود گفته بود اونجا که من تو این نقش خیلی راحت نیستم ولی خب مربی هر چی بگه همون ولی در عملن غیر مستقیم پیام داده بود که این داره منو جا اشتباهی بازی احتمال داره لوبتگی به همون فضاحتی که از اسپانیا جدا شد از رئال هم جدا شد حالا الان هم این هم بالبرده که حالا بهش میرسیم جفتشون وضعیتشون جوریه که یه حالا شایعه هایی هست که میگن اگه این ال که این هفته نه هفته بعد هست هر کدوم اگه ببازن بازنده اخراج میشه میدونی چیه من حس بکنم مخصوصا اگه طرف مادریدی باشه حالا بی... بارسون شاید یه فرصه کچون تری بهش بده حس بکنم والورده و لوپتگی اینا مربی های مناسب واسه ریال و بارسا نیستن هرچی بگیم توان فندیشون هم تا بالا باشه که تو مورد بارسایی بیشتر هست اه. اینا این تیمایی که این شکلی سوپر استار دارن مربیش نه بعض شخصیت سوپر داشته باشه و تا وقتی نداشته باشه اینو نمیتونن چه بگن چون یه حالتیه که انگار اون ستاره بودن بازیکن‌ها از رئیسشون بالاتره و شاید این تاثیر خودشو بذاره ماشاین. یعنی که گفتیو قبول دارم حرفتو یه هر یه نکته هم بود یه کارشناسی حرفشو میزد که تایید حرف توه میگفت که خب لوپدگی سابقهشون نگاه بکنی مربی مثلا جوانان اسپانیا بوده خب این خیلی سخت نیست به اون بچه های توی رخکن به اون سن مثلا بگی که فلان کار رو انجام بده اونجا کسی ستاره هم باشه بازم اونقدی بزرگ نیستش که بخواد حرف مرابی رو قبول نکنه ولی اینجا داستانش فرمون کنه این یه داستانه یکی هم این که حالا گفتم مثلا بدشانس خوده بریم سراغ بازم بحث فندی مثلا یه موردی که هست تو تیمای بزرگ مثلا ریال بارسا دفاع امسال کار کارباخال زیاد مصون شده تو روح. اون اونورم مارسلوئه یا مصون شده یا خوب نبوده خب سر همین وقتی میخوام فشار بیارن همون اون باعث میشه که نتونن از کنار تیم‌ها رو باز بکنن یعنی مهم. یار بدن جلو اونا هم مثلا با این یه یار بفرستن بعد اون موقع تیم تیم مقابل مجروح میشه فاصله بین بازیکناش بازتر بشه و این باز میشه با آره، بهتری میشه از بینشون کرد بعد سر همین خب وقتی اون نباشه اینا راحتتر جمع میشم وسط و کنارم کانالش خالیه و اینام هم چون بازیکن ندارن خالی بمونم هیچ اتفاقی نمیافته سر همین این باعث شده که این پاسکاری های بیخود عقب انجام بشه چون کسی هم نیست از تو بدن خب وسط هم که نمیشه راه پیدا کرد اه. این به مشکلات اضافه کرده رال باید مثلا یه دفاع چپ حتما بخره به نظرم دوران ماررسلو تقریبه میشه گفت تموم شده دیگه برای سال بعد یه صحبتهایی بود تابستون میگفتن که چون دوست داره بره میشه رونالدو اینو با الکساندر تاک بزنم. آخسانو هم سنش بالاست. باز به نظرم بهتره تو کوتاه مدت چند سالشه؟ 27 دیناست. الان 27ه. سال دیگه میشه 28 سالشته واسه دفاع چپ و راست نیروی جوان میخای. یه گزینه ای هم به اسم اون آلونسو ولی علی خب کندن اون از چلسی سختره به نظرم حالا اینا رو که بگذریم توی این بازیه اخیر مثلا یه بازی کنی که من خیلی دوست داشتم بازیشو که زمان زیدان بهش فرصت نمی رسید ولی لو داره بهش خوب بازی میده سوایوس بود امه. که خیلی قشنگ اصلا دلبری می کنه یه سیستم بازیش اگه حالا ندیریفه کنم چنان. این بخوام توصیفش بکنم یه ترکیبی از مثلا قدرت پخش کنندگی حال نمیگم درصد همونقدر را. ولی مثلا مثل جاوی میتونه احرام مثلا تیم باشه از یه طرف یه پا دو پاها و تکنیک و تو اینیش داران داره <تصفيق> خب سبکش تلفیقی از این دوتاست نمیگم حالا لزومن کیفیتش سبکش بعد به نظرم اگه فرصت بهش بدن که زمان زیدان خیلی کم بهش فرصت دارن یکیش مثلا یه بازی فیکس بود فکر کنم بارسل کلا همین جولای همین آلاوز بود <تصفيق> که دو تا گل زد رئال اون بازی دو یک برد ولی امسال رئال به مشکل این تیم تو همین این هم بودش توی اروپا هم جولای روم بود فکر کنم یه چند تا با... جول که گرید میل آورد بیرون اینو آورد تو این آه آه. اومد اصلا بازی رو گرفت میدون داری میکات دریبل میزد پادو پادو میزد خیلی خوب بود آره این مسئله که گفتی در مورد اینکه رهال نمیتونه دفاع حریف رو باز کنه نفوذ بکنه این توی آمار هم یه جورایی مشخصه ما توی چلسی مثلا جورجینیو رو داریم که بیشتر این تعداد پاس و پاس صحیح اوینا رو داره توی اسپانیا هم رکورددار داره پاس صحیح تونی کوروسه ولی خب پاس های بیهوده بوده حالا اون مرد چلسی میده گل میزنه ولی کروس داره الکی پ جاشن به ب... گفتم دیگه گفتم الان آره به وسط ها نزدیک معمولا هم الان توی تیم بزرگی که توپ بیشتر دارن می‌بینی بیشتر این پاس دفاع دف وسط ها میدننی یافک حالا این هم به عنوان حافک دفاعی می جسم نزدیک به دفابسط ها دیگه خیلی میره بالا واه پاسایی در عرض و روبه عقب و خیلی کمتر رو باجره داره کار میکنه کوز و این برا خودش شدی تیم تیمش خوب نیستش حالا یه انتقادی که به این دو پتگی از به خودش وارده اینه که این عادت یه کار درستی کرد اومد و به موریریت تیم فشار آورد که یه مهاجم بخرن و اینا بالاخره رفتن ماریانو رو خریدن ولی سوالی که اینجاست اینه که چرا خب به ماریانو به اندازه کافی بازی نداده حتی مثلا توی اون بازی زسکا که باختن چرا همه به همه استراحت داده تو کل تیم بجز بنزما و بنزما هم که اخیراً خبرش اومد که مصدوم شده یک دو هفته نیستش حداقل خب حالا باید ببینیم ماریانو میتونه از این فرصتی که واش ایجاد شده اون استفاده لازم رو نه خیلی خوب این از وضعیت ریال فرام تموم شد دیگه حالا یه چند تا چیزی دیگه میخوااستم بگم ببوند. مثلا اینکه اینا به آلاش که باختن کلا یه باخت داشتن توی زمینه اینا اونم هشت و هفت سال پیش بود خیلی آمار بدی بود یه رکوردده منفی بدی رو داره جابجا می این لبتگید و رئالی یعنی صبر مدیرای رئالم هم همیشه کوتاهه همیشه این غربونی همین مربی میشه یعنی يعني... تماشاشی تماشاشیاشون هم خیلی کمه خب بالاخره دیگه سی سیست... یعنی اینا ذهنیتشون بیشتر به برده نه به آدم ها ببین یه اتفاقی که افتاده من نمیخوام مثلا همشو بندازیم گردن لوپتگی یا بندازیم گردن دیوید مویس یا غیره این که این تیم های ضعیفی که قبلا اون رکوردای خوب جلوشون شکل گرفته مثلا 80 سال طرف نتونسته ببره الان فاض دیگه ای دارن اون موقع خیلی واسه تیم های بزرگ شکلات محسوب می شدن مم. ولی الان دیگه اون سیستم شکلاتی داره به میره بالاخره درآمد داره بیشتر میشه بازیکننسسازی استاد یابی و غیره این رکوردها بالاخره یه روز بر شکسته می حالا تیمای بزرگتر بخوایم بگیم توی یونایتد خیلی زود شروع شد به شکست شدن از وقتی فرگوسن رفت توی رئال دور الان اتفاق میافته حتی اون مربی قبلی بارسلونس مش چی بود آرژانتینیه مارتینو مارتینو اونم مثل یه سری رکورد منفی به جا گذاشت وقتی که. آره اون آره حالا اینکه گفتی در تاییدش همون سیدلو تو همون داشت صحبت می‌کرد میگفتش که امسال به نسب میگفت یه آماری بود شبیه این که مثلا تو 20 سال اخیر به یک فصل این بیشترین خرج بوده بین تیمای پایین جدول لالیگا امه. که الان هم میبینیم تأثیرشو مثلا فاصله بین تیم سرد جدول که سوی یا شونزه امتیازه با تیم ششم جدول دو امتیازه فقط الان تو انگلیس که تیمای این هفته به هم نزدیکتر شدن تیم اول و پنجم همچی چیزی داره یعنی یه خورده نداره. توای انگلیس که الان آره 3 تا 20 امتیازی بالان آره آرنالدو با 18 با تاتنام تا خود آره. دیگه بعد هیچ چی دیگه میگم این تیما این فشار چیز بوده خاویر تباس بوده که رئیس سازمان لیگه خواسته که بودجه بیشتر پخش بشه بین این ها یه پررو بازی هم کرده بود هفته پیش گفته بود میخوام دوباره مورینیو و مورینیو و گواردیولا رو برگردونم لالیگا فیک نمی‌کنم بتونه این کارو بکنه حداقل با گواردیولا فلان نه والا گواردیولا که خودش صحبت کرده بود این خب طبیعتا تو رال پروفایل گواردیولا فقط به همون سه تا تیم بزرگ میخوره که خب بعید میدونم بیا جلوی بارسا وایسه تو خود بارسا هم که فعلا فکر نمی‌کنم خودش رو نمی نمیخوام برم دیگه بارسا. آره و یه مصاحبه‌ای هم که کرده بود گفته بود که من دوستام آخرین تیمی که مربیگری میکنم جوانان بارسا باشه دوباره اما تیم که ازش بعد سر همینا بعید میدونم حالا اتفاقی بیفته به چیزی حالا مورینیو رو شاید مورینیو اتفاقا یه تئوری بود البته تئوری یا در حد تئوری ذهنی نه اینکه مثلا لینکی وجود داشته باشه اینکه مثلا الان ببینیم که لوپدگی اخراج بشه اونور مورینیو داره اخراج میشه این بیاد مثلا یه تا آخر فصل رو بیاد مربی را چون با پرس خیلی دوسته علاوه بر اینکه رئالی ازش دل خوشی ندارن اون آخرش برد برد. چون بعد این هفته که کامبک زد. اومد گفتش که مدیرای تیم با من تا 2020 تمدید کردن و منم نمیرم. میخوام خوام بمونم تا آخرش. اون آخه یه چیزی هم بود که میگه یعنی اگه میخواین اخراج کنیم باید اخراج کنیم پول پولامو بدین دیگه. اون داستان اونجوریه. ولی فعلا هم منچستر گزینه‌ای نداره. سر همون فعلا باید با اون سر کنم توی الان من جدیدا شنیدم که با کونته صحبت‌های کردن که اگه این چند آینده خراب بکنه بیاد جای چیز فکر میکنم گزینه خوبی باشه. کونته که فکر کنم واسه تیم ملی ایتالیا چندون دیس کرده بود. تیم ملی ایتالیا قبلا بود. فکر نمیکنم. نه اونجا الان مانچینی هستش جاش خوبه. حداقل تا یورو یورو دیگه تورنمنت بعدیاره. تا اون موقع هست. حالا تا ببینن بعدش چی میشه. ولی فکر کنم چهار ساله اینا باشه. مانچینی مربی خوبی امسوار. یه ذره از زوم خارج شده خاطر اینکه رفت توی تیم ملی. من خیلی مانچینی دوست دارم. فکر اون بود که این شخصیت قهرمانی رو به سیتی تذریف کرد دوران بازیش هم من یه سری کلیپاش رو نگاه میکردم از این بازیکنهایی بود که گلوی خوشگل زیاد میزنه خیلی والی میزد از این گلوی که رنو میزد خوشت پاره آره. از این کارا خیلی زیاد میکرد چه به لحاظ بازیکن چه به لحاظ مربی شخصیتش دوست داشتم هرچند که اومد حالا همسایمون رو قوی کرد ولی با حال آدم خوبی می زودتر یا دیرتر اتفاق بیفته آخرش میشدم هم چی چیزی من راضی هم از این قضیه دوست دارم تیمایی که باشون بازی قوی باشن و تو کام توی کانال تلگرام هم گفتم که دلم میخواد با حریفای قوی روبرو بشین دلم میخواد هازار بره صلاح بره یا مثلا امری نتیجه نگیره ضعیف باشه اگه اگه قرار اتفاقی بیفته یه قرار بردی داشته باشه یا قهرمانی داشته باشی با تیمای قوی باشه و حتی تیم تئاتری جدvalیم سعیت داشتم سال 2009 بود که پورتموس پور پورتموس پورتموس کنم همین آره. که آره. این بود فکر کنم وقتی فینال افای کاپ خیلی خوب اومده بود جلو بعد تئش دیگه یکیش فکر میکنم دیروز با گل زد چلسی برد شرم دویچ باختم نه یکیش بود یکیش بود یکیش بود, یکیش بود. یه هم... دونه مثال دیگه بلنگ همین من یادم میاد اون ویگان با مارتینز که همیدن قهرمان حسفی شدن سیتی رو بردن تو فینال آره, آره اونم چیز شد تو لیگ نموندم ولی قهرمان شدن رفتن پایین این اتفاقا خوبه که بیفته دوست دارم تیمم حتی 20 تا جدولم مثلا قوی باشن بتونن ارزندام کنم مثلا مثل مثلا فرانسه نباشه خلاصه که پاریس جرمن میره تو 7 8 میزنه میاد بیرون بعد الان نیمار برگشته گفته که من اینجا خسته شدم رقابتی نیست و مثلا اینکه به بازی کنه بارسا تکست داده یا به مدیرهای گفته که چی کار کنن برگردن بارسا آره ولی یه خورده من جواه هواداری حالا حتی اقل ایرانی ها رو نمیدونم خود اسپانیایی یعنی کاتالانیایی یا وضعیتشون چی جوریه خیلی بارسایی ها خیلی خوشحال نبودن از این داستان دلشون شکسته از اون قضیه و اینم خیلی مسخره شده دیگه هی hey, میاد بعد باباش ایجنتشه شه باباشم آدم می نیست میاد مثلا کمیسیون میگیره هی هی هم جابجا میشن خیلی خوشم نمیاد از این داستان من م... خودم به شخصه مثلا ترجیح میدم که رئال بخواد بازیکن بگیره امباپه خیلی بهتره امباپه خیلی بهتره آره آدم آروم تریه یه دونه پخته تره بابای نیمار آدم نیست یه دونه این ایجنت پوگبا رایولا اون چه کو آره خب بدمه هیچی دیگه بعد این که رئالو صحبت کردیم حالا رئالو بریم به بارسا عبور کنیم بارسا مدلش یه چیز دیگه است مشکلاتش اونم اینه که اونا میتونن گل بزنن منتها همونقدر که گل میزنن هم میتونن بخورن ام. اون عقب اومتیتی هم که جدیدن مصوم شده دوستازمون پیکه بعد حالا اینو بگم این امتیتی مصوم شده و پزشکای تیم ملی فرانسه گفتن که این چیز لازم نداره این جراحی ولی تو بارسلونا وضعیت جوریه که میترسن شاید جراحی لازم باشه سر همین بعد اگه جراحی بخوام بکنن تا آخر 2018 حتی نیست و الان دفاع وسط های بارسا فقط پیکو و لانگله هستن که این لانگله هم تازه کاره پیک هم که یه جور دیگه تازه کاره بعد الان دفاع بارسلونا به هیچی نه نمیگه این یارو استاد لورد اعظم ورمایل که <تص> یه uh مدت تو <تص> آرسنال uh اصلا محصوم بود کل فصل میرفت پس هم آخر فصل میامد خدا دسته کنم میداد تو <تص> اون رجه آخر فصل هست تشکر میکنن فقط همون موقع میدیدیمش ما اینم سر اون رقابت دفاع وسط نبودن و تیما لازم دارن بر اون پست منچستر و بارسا چی شد پونزن ملیون یورو کردیم تو پاچه اون هم نمیخوایدن منچستر بود حالا فکرم پار بود یا پیار سال فکرم پار سال بود خانوم فرمایله داشته بازی بار سال رو نگاه دو تا بچه کچیک های فرمایله هم اونجا بودن بعد این درسته فیلم میگرفت از اون صحنه که فرمانیت تعویض میشه میاد تو زمین ها. بعد بچهای فرمانیت چهششون گرد میشه که مثلا بابا بالاخره بازی کرد آره یه چیزی چیز یادم میاد بعد اومد تو هفته بعد مصطوم رو دیگه بازی نکرد <تصفح> این یه چیزی که اون موقع یادمه خیلی جنجال به پا کرد این بود که این یه دقیقهم تو چمپیونزیک لیگ بازی نکرده بود آره بعد بهش مدال دادن بعد مثل که تو قونه یوفا اینجوری که حداقل بعد یه دقیقه یارو بازی کرده باشه یکی این بود یکی هم <تصفح> اگه اشتباهی نکنم براوا بود اون سال تو چمپیونزیک لیگ بهش بازی ندادم ترش بازی میکردم آره, آره, آره, آره اونم بهش مدال این دوتا رو یه جنجالای شد. حالا این فرمالن که میگفتم این الان دوباره رفته تیم ملی بلژیک مصون برگشته. نیس. دو سه هفته حداقل نیست. حالا بیشتر رو نمیدونم ولی اینو که مطمئنیم انقدر از داستان نیست. یه پادکست بارسایی گوش میکردم انگلیسی بود. میگفتن که میگفتن که چیزه من دارم به مهمان میخندم کردم میخواست بگه تو این وقت از کجا میاری پادکست بارسایی هم گوش یه چند دقیقه گوش میکردم ببینم داستانشون چیه که بیشتر برم تو امقه داستان بالاخره رئالی هم خیلی بعد اینجا نمیتونم فقط رئالی باشم بعد میگفتش که کجا بودی مثلا یه گم کردم داشتی پادکست بارسایی گوش میکردی؟ رجبه چی بود فرمالن، فرمالن دیگه دفاع وسط پزشکی آ تیتی اینا رو دید میکنید دیگه نه نه باشه خب <laughs> میگم هم یه تئوریوری حالا جالب میداد چون این والوردم کم پست عجیب بازی نمیده بازی کنه رو که ویدال رو بیاد مجبور چه بذاره دف وسط چون اینم دقیقه میخواد بازی بکنه یعنی شاید کارشون به اونجا بکشه ویدالم هفته قبل از بازی والنسیا بعد از بازی تاتنهام یه ایموجی ناراحت پست کرده بود تو توییترش که من یعنی ناراحتم من باط بازی بکنم ام. گویا حالا گمانه‌زنی‌ها اینه که اینا چون اینتر و بارسا جفتشون میخواستن اینو بعد اینا کارشناس از اعتماد که مثلا بارسا اومده بهش گفته که بیا اینجا ما انقدر به تضمین بازی میدیم این اومده اینجا دیده نه همچی خبری هم نیست آخه تضمین نده که همون میشه. دیگه نه لغو کنه مثلا یاری رو انگار گول زدنای خورده آوردن بعدی خورده شاکیه هر میگن که بخاطر با این وضعیت اخیر بارسا تو سیستم دفاعی ویدال بازی بکنه خیلی بهتره سر همین که فکر کنم اینتر هم رفت ناینگ گولانو گرفتگی ویدال رو از دست داد چون اینا جفتشون با هم که یه جا جا ندارن. حتما بهتر شد. چون تعداد بازیای ویدال رو برید چک بکنید توی سه سال اخیر. خب مثلا یه فصل اولش مثلا 20 تا بازی کرده بعد اومده شده 20 تا بعد الان فصل آخرش فکر کنم 17 تا بازی استارت یعنی شروع تو ترکیب بوده. همینجوری ریتم نزولی داره، مصونیتش زیاد شده. پارسال هم خیلی بایر مدیراش ازش قول گرفته بودن که امسال دیگه خوب باش ولی ندیدن چه چیزی دیدم بازم هی بدتر شد دیگه ردش کردن رفت خیلی هم غرور میزد و اینا ردش کردن رفت و اینجوری شد. حالا باررس هم داستان شده بازسهش رو ببینیم تو این چندتا بازی که این مقطعشون اصلا بازی ها عجیب غریب سخته با اینتر بازی دارن دوتا با سویا بازی دارن با رئال بازی دارن یک دوتا بازی دیگهشون هم متوسط سخت بود کنمم حریفشون اعتمال داره اگه مثلا رئال و بارسا به همین روندشون بخون ادامه بدن کجدار مریز برن جلو اتلتیکو داره همینجوری یه کیچکیش تراخاموشی میره میاد جلو اتلتیکو هم به نظرم اونقدری که باید متقاعد کننده بازی نمیکنه اگه واقعا اینا هم فصل کن شروع میکنن نیم فصل دوم ولی اگه رئال و بارسا هم برن جلو به نظرم میتونن حتی قهرمان بشن اینا حالا یه حاشیه‌ای هم اون یه اون یه داوری بود الیزوندو گلزالس بود چی بود اسمش اون خیلی هم. یه بارم فکر کنم دربی تهران اومد سود زد خرابم کرد بازی رو اون خیلی هم من از این بدم می اومدام خیلی بد سود میزد به برای رئال یعنی نه اینکه بگم مثلا انتظار داشته به بنفهم اون بزنه ولی مثلا عادی سود عادلانه سود نمی فکر کنم به عنوان یه رئالی ترجمه کلا اون جونه چاکر سود بزن برای رئال دیگه شونورا کن <تصفيق> داستانو چاکر درست شوت زده بود اون بازی با منچستر بقیارش چی همه رو داره به نفع اسپانیایی میگیره اصلا ذات این آدم خرابه تو خود ترکیه به نفع یعنی چی به, به نفع اصلا 55 ها رو به نفع اسپانیایی میگیره حتی مثلا اون تیمی که هیچ کدوم مثلا جفت اون تیما اسپانیایی نباشن نگاه میکنه میبینه این چی میره بالا اگه به اسپانیایی میخوره یه اخراجی یه داستانی بهشون وارد میکنه حتی تو خود ترکیه مثلا یه نژد سنجیایی بود مردم ترکیه از این خوششون نمیاد و اصلا دوست داشتن تو لیگش داوری کنه میگن که اصلا منصف نیست و مثلا به نفع میگیره و مافیایی و این داستانا حتی میگم تو خود ترکیه والله این چیزا داره. خیلی عجیب نیست چون خود ایرانم هم مثلا همین فغانی که الان جدیدن خیلی خوب همه دوستش دارن مم. چند سال پیش که همچین بازی بهش نمیدادن همه تو لیگ ایران چاکی بودن یادمه فقانی هم خیلی به دست استقالی ها ازش چرا دیگه تو یه پس دوبار مجیدی رو اخراج کرد آره. میگم تو خود ایران مثلا محبوب نبود رفت بیرون یه افتخاراتی آورتیه همه یه هوی عاشقه شدن حالا این مسئله که گفتی من جا داره که یه داستانی تعریف کنم بحث ایران رو که انداختی من یاد این گل رمزی افتادم که گل زد آه. آقای بهرام شفی مرد با کنید کنیدیم بس, کنی بس خریبا مرد دیگه م... چیزه ها خیلی و فان قضیه که به رمزی رب میدم ولی خب اتفاق میفته دیگه anyway. آقای نوید خور خورشید دکنه فردای مرگ آقای شفی اومد یه مقاله نوشت که باشنگ شست گذاشت کنار این شخصیتو تیترش اینه که بهرام شفی مردی که مرگ قسل تعمیدش بود یعنی میگه که این آدم نه هیچ تخصصی داشته نه هیچ نقطهی روشنی تو زندگیش داشته این نقطه اتصال داشته قشنگ نقطه اتصال داشته آره. بعد سی و چند سال یه برنامه رو بدون این که هیچ بار فنی داشته باشه در رقیبی داشته باشه آره اینو اداره کرده بعد حتی مثلا اینجا اومده گفته که آقای چی بود اسمش بگو بدونم چی درستان رئیس وزیر ورزش یا علیابادی نه نه که خیلی قدیم بود گفتم جد قاتل قدیمیه نه میگفتش که مثلا این مسئوله حالا آقای ایکس هر آقای ایکس میگفت این می اومد هر هفته تو برنامه شفی به خاطر این یه ای کاری کرده بود که این نره از این برنامه می اومده هر هفته تبریق واسه خودش می کردهه که بییلون کاری میداده من این کارو کردم من, من یهدوننه یادمه یه یارو بود تو تربیت بدنی لحجه ترکی هم داشت هم. تو دانشگاه آزادم یه پست تربیت بدنی داشت آره ال همیشه تلویزیون نشونش می تقریبا میگم تو ماه اگه چهار تا برنامه بود این تو دو تا ستاش بود اونو فکر کنم آره همونه آره. من جدان دنبال اسمش میگردم خلاصه مثلا خیلی ها تو ایران اینطوریه سیستم که تو وقتی که میمیری مردم یادشون میره و یه برا برای همه عزیز میشی اما نباید فراموش کنیم که به قول تیترای همین مقاله راندخاری اگه بده واسه همه بده آقای یه پوستی هم داشتین رئیس فردسیون هاکی بود آره. باید کنایامیزش اینه که اینا معلوم نبود تو چه جام جهانی با چه, کش... چه تیمایی میرفتن بازی میکردن قهرمان جهان می ولی مثلا تو بازی آسیایی تیم نمیدادن. Likely. و اگه واقعا مثلا ساعت خوبه برو اینجا مدال بگیر. چیه؟ تریپ چی میگن خزانه ورداشتی که okay. چی مثلا؟ این آقای اسمش چی؟ آقای محمود گودرزی بود که هر هفته میرفت رو آنتن برنامه. اون چرا میگن یه نفر دیگه است؟ آها. اون چیزی بود. این وزیر ورزش وقت بوده یعنی اون موقع آها. بوده آره که آره. می بعد آره شفیع رئیس فدراسیون هاکی بود بعد حتا یه مجله‌ای بود همشهری تماشاگر هو. این برنامه شفیه و مزخره میکرد این گفتش این وردش و مردم نیست هاکی و مردمه آره. و بعد خلاصه بگم ایشون هم که فوت کرد و برای همه دوباره عزیز شد فیروسیپو میرفت گریه میکرد حتی اونا باید گریه کنن چون گنده اونا بوده آره اونا میتونن هم چیزی بگن ولی خب برد. خود اونا هم خیلی چیز خاصی نیستن خود همون فردوسی هم من نسبت خیلی کارش ام. زاویه دارم مثلا داستانش مثلا حتی این ماجرای بازنشسته ها و اینا اینجا نوشته که شاپ آره، در مدارک ایثارگری ارائه کرد و توی اون رئیس فدراسیون اونکی بودن ابقا شده و جادش که حالا لایه این داستان اینا بگیم که حالا حداقل شنونده های ما اون نظر مثبتی که عامه مردم به شفی دارن مثلا وقتی که فوت کرده بود بابای خودم بهش نگاه که تلویزیون میگو اه شفی مرد چقدر مثلا با گزارش های حال کردیم حالا چی بوده که خاطره خود شفی میگفت داشتم یه بازی دید. یا تیم برزیل بود توی این مهم. کوپا آمریکا پایین ما اینا یا این بود یا یکی باشگاهی برزیل بود یادم نیست دقیق کدومشون بهشون بود میگفتش که من هم گزارش می‌کردم اسم این هم بلد نبودم بعد طرف می اومد من توپ رو دستش یه اسم لاتین می گفتم پاس میدم به یکی دیگه یه اسم لاتین دیگه میگفتم می گفتم بعد توپ به همین که که برام میگاش یادم میرفت چه اسم می گفتم یه اسم دیگه می ساختم براش یعنی مثلا با حتی حد عقل های دانش شناخت بازیکن ها رو نداشت این ادم اون اسمی که ساختی رو اسمش بنویسن اونا رو بگو چه کاری اینقدر مثلا ادم تعطیل و سیو والا اینا یه برنامه میدونی چیه بحث روانیش اینه مثلا تو ایران حافظه جمعی جالب نیست سنگین جالب و... نیست و خیلی هم پیگیرش نیستن ولکی هم دوست دارن دراماتیکش کنن اه, اه, اه. مثلا واقعیت علمی اینه که ما یه که حفظ میکنیم یه خاطر ای رو رد که میشه یه قسمتی از ذهنمون میره بعدا اونو قاطی اوهام و اینا میکنیم بعد حالا بسته به ذهنمون که منفی گراه باشه یا مصبت گراه باشه اونو شکل میدیم اه. خب این هم شده ما نمیدونم چی جوریه یه ترحومی برای مرگ داریم آره. اینو مثبتش میکنیم بیشتر م... یا مثلا نستاجیه بیخود مثلا من میدونیم که آخای مثلا خیابانی توی در هفته جزه محبوب ترین کاراکتر تلویزیون ایران بود صدا و سیما. خب اون هم سر بازی مثلا معروفی که خیلی هم تهجانی گزارش کرد اون بحثش خیلی خوبه ولی نظر اطلاعات و چیز بازی که میری چک میکنیم من مثلا بیادم دو سه سال پیش یا سه چهار سال پیش بازی استرالیا و ایران بازی تهرانشو نگاه میکردم تکرارشو شدهش نشون می دادیه که شاید ایران سه بود نصفشب داشت نشون میداد. تو همون بازی چون من اون تیم استرالیا چند تو لیگ انگلیس بازی میکرده میش ایرانم که خوب می نگاه میکردم تو همون اون بازی پر سوتی بود کارش دروازهبان اون مثلا نقطه روشن کل کارنامشه تو دیگه ببین بقیه اش چیه دوستا دروازهبان استرالیا منچستر بازی میکرد مارت بوسنیچ بسنیش اون قیافش خوب بود منم عین اون اون آقای مهنا مدیری و داستان اون پلیکتونیک لاپ دوست داشتم اینو اصلا کلا از قیافش اون کارت بازی هم میکردم من اره. کارت اینو همیشه از بقیه بیشتر خوش قیافه بود حالا این آقای اتفاقا گل هم نبوده تو چلسی هم بازی کرده بود آه. بعدن دیدم چه گل افتزایی خورده این آقای نوید خورسی یه کانال تلگرام داره خوب. توش همین چیزا برای خودش می نویسه کانالش هنوز 900 تا ممبر بیشتر نداره امه. و اصلا دل خودش راه انداخته داخل ایرانه یا اون بعدا نه کنم داخل ایران باشه امه. بعد من پستی که در مورد شفی نوشته رو توی کانال تلگرام خودم فوروارد میکنم کسایی که دوستان میتونن بر عضو بشن مبا رو بخونن جاه کلیپ میذاره یا دست نوشته خودش و این ستان چیز خوبیه خ... کلا من خاطره هایی که راجبه این مثلا یه خبرنگاری هم بود من توی برنامه اوبریالل رادیو فردا راجبه این صحبت میکرد که قبلا خب تو ایران کار کرده بود اون خبرنگار خاطره مثلا میگفت که این مثلا آدم فانی بود مثلا خوش برخورد بود آقا اینا دلیل نمیشه یه نفر یه شغل حرفه ای رو خوب اداره کرده باشه میتونه یه آدم فان باشه با کل ملت بگه بخنده ولی دلیل نمیشون رو بکنیم مثلا رئیس جمهوری کشوری چه وقتی و... هم بهش میگی گونج اونو... گیرونه میگه بیا هم محل ما بخار ارزونه اونو باید بکنیم مثلا شومن <تصفيق> تلویزیون خیلی کارش اگه خوبه حالا بگذاریم از آمریکا که این کارو میکنه اونا زیر ساختای یه چیزشون رو دارن آره. که الان میبینیم چقدر هم بهتر شده وضعیت خیلی بهتر شده وضعیتش بعد دوستمون وعده نداده که عمل نکرده باشه ولی ایران یه ساختار اجتماعی دیگه کاراکترهای دیگه میطلبه سیستم ضعیف‌تر سیستم کاراکتر محورتر <تصفيق> سر همین تو آدم درست نظری اونجا ما تنها معدود آدمای پدر بخوری که اونم چون انقدر بقیه داغونن اینا خوب به نظر میان <تصفيق> مثلا مثلا این برنامه فوتبال 120 تا 90 اونها یه جورایی کپی از ورژن‌های خارجی هن. بدونه اینکه حق کپی رایت بدن خب یک کپی به قول اون طرف گفتنی ورژن مستضعفان اوناست آه. خب این نمیشه به نظرم مثلا فردوسی پور یک گزارشگر نرمال و استاندارد نسبت به گزارشگر خارجی اه. و برنامه‌اش هم همینطور ولی چون مردم خیلی ها زبان مثلا بلد نیستن نمیتونن برن مثلا چند تا کشور و برنامهش رو ببینن مقایسه بکنن فکر میکنن که این داره یه چیز فوق العاده ای بینه دیگه مثلا گزارشگر گزارشگره جهانه آره. ولی خودش هم حتی میگفتش که میگفت من خودم بعدم میاد میشینم گزارش خودم مثلا تو اخواهشی میگنم هی میگم توی دربازه توی دروازه توی دروازه چون جم... انجام میشه روی جمعی... دروازه جمله دیگه نداریم مثلا حالا آره. اینی که گفتی یه دونه خاطره از شفی بگم که از фамиلامون تعریف میکرد که سنش بی کم بیشتر من آخرای گزارشو شیدم خب تو کنم آخرین دربی شو دو آره آره چیز کرده این میگفتش که مثلا ده اینا یه دربی بود این گزارش میگه استقلالی هم هستش آره شفی. بعد یه سحنه کاویانپور نمیم شوت میزنه یا سانت میکنه سمت دروازه گفته بود یه شوت بی هدفت دیده تو گل شده یه بعد توی دروازه خود خیابانی هم ساله 88 بود موقعی که استقلال قرار ما شد 70 تا گول این زدش توی لیگ با قل نویی خسروی یه سانت کرد بعد اون گل شد این خیابانی خوابش پرده بود یه سانت بی هدفت و توگ دروازه خیلی هوجی تلکون گذاشت کنار بعضیشون هم اوور یعنی یعنی خیلی دیگه چیز میکنن آره. مثل اون احمدی که میاد مثلا میگه که یه پاس عالی بعد پاس عالی میبینی میره تو اوت <تصفح> اون چه پاس عالیه داره میره تو اوت حالا تو اسپانیا اسماعیه کجا ها رفتیم حالا تو تیم ملی به استاد خیابانی و داستانش هم میرسه بله <تصفح> آره بکنم کنم بارسلون هم اندازه کافی گفتیم دفاعش داغون بوده این داستانو باید ببینیم حالا این هفته چیکار میکنه هفته بعد بیشتر میشه راجعش صحبت کرد اتلتیکو هم برد، سیویا هم برد، آلاوزم که رئال برد اومد سوم خیلی güzel بر... آلاوزم آره خوب بودن امسال بعد اه... رئال الان چهارمه، بارسا دومه برای رئال هنوز فرصت هست دیگو ببره ولی بری... خب میتونهس خیلی فرصت جالبی بود بره که مثلا با خراب کرده داستان یا برعکس هی تاوخ زدن به هم دیگه آخرش هم فلان انقدر تعارف زدن یکی دیگه هم منجاشون نشست این رتبه نهم تا 11 جدول لالیگا هم جالبه خب سوسیه داد تا گل زده یازده خورده سلتا ویگو 13 تا زده دوازده خورده از این ما لوانته دوازده تا زده خورده 6 از خورده خونه خودش هم بود فکر کنم این نشون میده اینا حداقل تو دفاع و حملهشون بالانس دارن دیگه همون قدری که میزنن همون قدم هم میخورن بیشتر میخورن آره زیاد <تصفح> گل‌های زیادی میخورن گله زیادی هم می‌زنن به نسبت پرگوله می هو هم که اومد تو تیم ضعیف یعنی به من یه صحبتی میکرد سیدلو میگه گفت... از یکی از اون کارشناس اون ور یادش پرسید گفت فکر اولی مربی که اخراج میشه چیه کیه که حالا اسمش یادم رفته ولی مربی همین او اسکا بود که میگفت به نظرم یک دو تا بازی دیگه اخراج یعنی به بازن اخراج میشه احتمال داره من فکر کنم حتی مربی فولام زودتر از یعنی اینف اومد اخراج یکی این یکی هم مثلا ویارال که تیمش خوبه 16 جدول داره ویارال هم. هم. تیم خوبی باشه ولی مربیشون خوب نجن نگرفتونم احتمال داره مربی نزدیک همین اوایل پس اخراج بشه درست خب بریم سراغ ایتالیا بعدش هم دیگه بدون فاصله از همون ایتالیا سویش بکنم اونجور تیم میدیا آره بریم بخش آخر برنامه که میکس ایتالیا و بازیه ملیه خب ایتالیا رو که گفتیم همه تیمای بزرگ بردن بازیاشون جز تیمای کوچیک یوونتوس، پورد، روم، برد و میلان برد، اینتر بورد، ناپولی برد لاتزیو بورد، لاتزیو تا فیرنزینا رو برد. این یه ذره بازی مهمتری نسبت بقیه بود. ولی خب به حال بردن دیگه. خیلی چیز خاصی نیستش. داره همون شکل عادی خودش رو پیدا میکنه سری آ یعنی یوونتوس داره میره که قهرمان شه. الان یووه یه جدول نه 24 امتیاز داره تیم بعدی ناپولیه که 18 امتیازه و یوونتوس ناپولی صرف... خوب بوده ولی اینا خوب همه رو جمع کردن دیگه الان دو تا تیم تو کل لیگ های سطح اول همه امتیازار رو جارو کردن یکیش همین یوونتوس یکیشم هم پاری سن ژرمان که خب اونجا حیات خلبت آره دیگه داره به حالا حال اون شکلیش پیدا میکنه و هم که قهرمان میشه البته چیزی جالب می که این دو هفته اتفاق افتاده ماجرای این رسوایی اخلاقی کریس بوده ام. بعد حتی ای‌ای ای هم به این قضیه واکنش نشون داد اومد یه سری اون عکس های کریس رو کابره فیفا برداشت منتخب مثل اینکه داره تبرعه میشه از این ماجرا و دوباره ای, ای برگرد اون عکس کریس رو به کاورهای فیفا اما خب اتهامی که وارد شده هست دیگه یعنی مطمئنی داره تبرایی میشه چون من نمیدونم حالا من آخه واکنش ای ای رو دیدم اینقضی ایی سخت میگیره نمیدونم ولی آخه یه چیزی دیگه این من یه جا دیگه خوندم که میگفتن یه زن دیگه هم همچین ادعای اومده آره نفر دوم اضافه شده آره، نمیدونم حالا چقدر مدرک داره چقدر آخه من نمیدونم تجاوز چرا خب یه دوستی یه حرف جالبی میزد میگفتش اگه کیریس بخواد با هر کدوم از طرفدارای دخترش اه. یک بار رابطه داشته باشه این سی سال طول میکشه بیشتر آره خب چرا تجاوز بعد مثلا حرفی هم که اون زده بود گفته بود من وسط کار پشیمون شدم بعد کیریز ادامه داد خب بعد تو کی که وسط کار پشیمون میشی یعنی اون خودش بسن مسئله منتال اون خانومه هم بعد در نظره که تو که تا اینجا رو اومدی خب بلکن دیگه حالا شد دیگه والا اینایی که تو میگی الان میخواییم جا رو باس کنیم میره تو بحث روانشناختی و نمیدونم جامعه شناختی و حقوق و فلان, و فلان. آره. حالا تو ایران خیلی مثلا گروه های انجیو هایی مثلا فیمنیست یا چیزایی دیگه نداریم که بیان بیافتن به جونمون بعد. <تصفح> مثلا میخواییم حرف روانشناختی آره. مثلا گروه ها مثلا همه زده صحبت میکنن حالا من موزه خاصی ندارم ولی در کل میگم میگم هر چی بگی یه گروهی میاد مثلا تو ایران ما نداریم این وضعیه رو یه طالام پروانه است که همه رو آباد کرده تو کافیه مثلا تو کوچه‌تون گل کوچیک بازی کرده باشی واسه گزین است و بقیه هم که یه خانم قریشی بود با طارمی مثلا که داستان داشت تو قطر آه. دیگه نیستش این داستان همین یکی دو نفرم حتی قدیم بود بازیگرا خیلی دوست داشتم با فوتبالیست‌ها رفیق باشن آره یا زندگی بکنم بعد از انقلاب یه خورده فاصله افتاد بعدا دوباره داره همون داستان ادامه پیدا می‌کنه آره هیچ دیگه اینم که اینجوری داستان شده میگن دوباره سهم یوونتوس 7 8 درصد اومده پایین <تصفح> قبلا 16 درصد اینو رفته بود بالا آره بعد حالا ببین تهش چی میشه دیگه یه سری اومده بودن یه تئوری توتله درست کرده بودن که گفته بودن این چون مثلا تو رئال بوده رئال گفته که برو به این حق و سکوت بده که این صداش در نیاد در صورتی که خب جور در نمیاد اخه چرا مثلا بعد لئوادم چیکار خوب خود رونالدوه دیگه ببین برهی که این اتفاق افتاد کی بود سال 2009 بوده. بین این انتقال آره. از یونایتد به رئال بوده حتی یه چیزی بگم یه سال قبلش قرارداد بسته بودن خب و فرگوسن یه سال نگارش داشت یعنی قرار بوده که بره آره. یعنی خرید پرز نبود خرید کالدرون بود آره بعد الان این اتفاقی که افتاده من یه دوست یوونتوسی دارم اه. خیلی حالا با هم شوخی رو داریم من یه سری به این گفتم که ببین یوونتوس چه باشگاه کوچیکیه که با اومدن این یه بازیکن یهو ارزش باشگاه رفته بالا سهم رفته بالا درآمدزایی رفته بالا و اینکه همین بازیکن سال 2009 از یه تیم دیگه داشته میرفته به یه تیم دیگه یه کارهای این وسط کرده الان داستان لورفته باز دار سمام این باش یعنی میزان اهمیت رونالدو و بزرگیش داره اجرای جرای به یوبنتوس میشربتین قضایی های مالی و سهام و این داستان ها اکتر یه خوردم به نظرم زیاده تون میری و الان مثلا تو فوتبال این دو نفر و رونالدو واقعا این پوزیشن رو که پیدا کردن مثلا عجیب غریبه و واقعا حالا حالاها تون میکشه که یه نفر دیگه بتونه به اینجا برسه شاید مثلا امباپه شاید امباپه آره. آره. آره. اون چون میگن که حالا یه شوخی بود یه نه این خبرنگار فرانسویا میگفت از فرانسوی فرانسه میگفت این ظاهرم 20 سالشه مثلا خب ولی اکتش اون منشش شبیه یه آدم چهل ساله اصلا از این آدم هایی جشن قهرمانی گرفته بودن توی استادو فرانس اینجوری بود انگار مخواست مثلا زود بره اصلا انگار کار داره خیلی مستشبه نیست خوشگذارون نیست مثلا خوبه دوست دارم همچین بازی کنی. آره این ذهنیتش اینجوریه حالا چرا اینجوری شده زودم بچه هم زود داره دران 19 سالش داره 20 سالش میشه دسام 20 سالش میشه الان یه دونه بچه دو ساله داره تو 120م میگم فان نشون دادی یه حفله لای اون اونا هم فکر کنم تاثیر داشته تو داستانش <تصفيق> زود بالغ شده دیگه آه. من فکر کنم تو صورتش هم از این جوشهای غرور و مثلا جوشهای جوونی ندیدم فکر کنم مثلا 10 تا 12 سالگی جوش سر تموم شده یافش هم شبیه این لایک نینجا است خیلی با اون جوخی میکنه خیلی خوبه اون داستانش خوشم میاد علی خب بازیگونه باحالیه چش هم موقع خیابانی بود که دو سال پیش بود یا پارسال بود آه. بعد این یه دیریب زده بود مگش گفت دریبل امباپه ای زد اونم یه چیزی بشه بعد تو ایران که اصلا دیریبل یه چیزایی میگن چی ولش کنی؟ اون خیابانی رو می‌خوایم این آهنگش رو بذاریم که یکی میکس کرده بود بذاریم ببینیم چه میشه دیگه فکر کنم جالب باشه واسه بقیه اجازه بدید که به ایشون آمد بگیم welcome تو ایران مستر پاریس I hope to enjoy in my country. My country is a uh, very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in uh, uh, American and Bolivia is very good team. Uh, uh, one question. One one one one question. One one one one, one question. Which player in Iran you know? Uh, Mr. Farias. Uh, last World Cup in uh, 1994. -19 -19 -19 -19 -19 okay? uh, why your team in uh, World Cup? No. حالا توی ایتالیا که بودیم فکر کنم خیلی چیز خاصی نداره این هفته حتی نظر فنی هم مسئله خاصی نبود یه دونه آقای ایکاردی بود که دوتا گل زد و داره اون روند خوبش رو پیدا میکنه همون صحبت که فکر کنم اپیزود یک کردیم ترکیب یه تیم ایتالیایی با یه فوروارد آرژانتینی داره توی اینتر همیشه جادویه آره. به قول این ایتالیاییه هم باتی تا هم که بود اون موقع آره. مارادونا ما بود همینگوینگوین آره یوونوس آره یوگوین آره. هم دابل کرد توی میدان گلای خوبی زد امسال هم اون پیاتک هم که لاستانی صحبت شم کردیم الان خیلی تیمما لینک شده ولی جیدا مثل اینکه بو میاد که یوون میخواد بشه چون این فرمول معمولا تیمایی که بازی کنه که میخواد برن تو تیم های میر روناله اولش یه مصبه رااجبه ای میکنن بعد راجب تیم می کنم بعد میرم اونجا این الان اون مرحله اولو پاس کرده گفته هم. به نظر من رونالدو بهترین بازیکن جهان می غیر انتو سیو احتمالام میتونه خوشا از اون تمام کننده است فکر میکنم خیلی فانتزی باز و اینا باشه از اون واسه عین مثلا این کاردی که ضربه اخر میزنه هم. تو بازی شاد نباشه خیلی البته فکر کنم این هفته باختش دیگه چی جنوا حالا اون مهم نیست مهم اینه که اون بازیکن خوبیه او خیلی بازیکن خوبیه آره. رکوردش چنکو رو جواب دهه کرد توی اوایل فصل سه یک خوردنشون شو به کارما باختن. آره حالا تیمشون تیم, حب... تیم بسج جدول میبره میوازه. بریم اصلا سر بازیه ملی از آره همین... همین تیم ملی ایتالیا می‌زاریم یکم کنیم رجوش. اینا مانچینی رفته اونجا بعد اینا مانچینی هم خیلی دنبال آزمایش کردن و اینا بود یه خوردم هم چه نیمچه جدی نگرفته بودین دیگه نیشن و دیگه ملت اروپا رو یه خوره نجای بعدی گرفته بودن من از این گفت سقود کنم تو این آخری ها به خودشون اومدن جدی گرفتن مهم. بعد از اینا بکن کلن بازی نبرده بودن یا مثلا میگفتن که تو 2018 به بازی با عربستان تو هیچ بازی دوتا گل بیشتر نزده بودن این آخری ها فشار ها بردن جلد خوب بودن دقیقه آخر هم یه گل زدن خیلی خوشحالی زیادی کردن که وازیو دارن میبرن یه خود زیادی احساسی بود یه سری اراده گرفتم بهشون که حالا چیزی هم نشده که انقدر شما مثلا اینجوری بود خوشحالی با اون خوشحالی تاردلی مقایسه نکردن که اصلا قابل مقایسه نیستون نیمه... نیمه نهایی بود یا فینال بود اون یادم نمیاد ولی فکر جلو آلمان فینال بود فینال بود فینال بود آره فینال بود داره. خوشحالیش یادمه این که کدوم مرحله بود یه روسو خوشحالی کرد اونم میشد رابطه چون نیمه های جام جهانی بود مال روسو جلو آلمان اون این یکی دیگه واقعا یادش به فابیو گرستا خیلی واقعا با حالی بود ولی یه چیزی که میگن مثلا این مثلث خط هافک ایتالیا که جورجینیو و این بازیکن پائسنر من چی بود اسمش یادم رفت این وراتی وراتی وراتی آره. و یکی دیگه هم است این هم مال نم کالیاری فکر کنم بازیکن یه چند تا تیم بزرگ هم جدیدا لینک شده که بره اونجا مخصوصا دیورپول مثلا اینا ستا مثل این ستامش اینکه یه بوهایی از سللح قدیم ایتالیا میدن که میتونن یه چیزایی برگردونن و جیلا خوب شده ایتالیا به خاطر این ستاس از اونور انگلستان اومد تو تو بازی کردونه با کرواسی بود که این کرواسی دیگه داره اذیت میکنه من نهیدم اون بازی رو ولی اونایی که دیدم خیلی پشیمون بودن کلا که من دیدم آخره از همماشا چی خالی بود ورزشگاه محروم بودن به خاطر اون داستان یه بازی بود کرواسی. جالبه محروم بود منتهی کدوم شیر پاک خورده ای اومده چمن بازی رو شبیه آرم نازی زده بود آره آره آره, آره. آره، سر این محروم شده بودن این محرومیتا اونجا مونده بودش نمیدونم این چی بود چیه داستان شیر پاک هم نمیخواد اون فکر کنم اون آره واسه <تصفيق> مهربون باش تو بعد این که حالا 0 0 تموم شد ولی بازی جذاب این هفته همون انگلیس و اسپانیا بود که تو نیمه اول انگلیس اومد تو گل زد بعد معلومو داشتم میافتم پیاده روی آخر شب و اینا دیدم گلو گفتم ای با. بازیو نگاه نمی کردی؟ نه رفتم آه. تو ماشین نشستم بعد دیگه بازیو رو گوشیم آوردم نشستم نگاه میکردم و اینا خیلی خوب بود یعنی حداقل نیمه اولو ساوتک نشین اونقدر مربی بی پلنی نیست ولی خب نیمه دوم بازی خورده شل کردش حالا من یه سر دید شخصیم رو بگم من همیشه نسبت تیم ملی انگلیس بدبین بودم و این سری هم رو خوب شانس آوردن اومدم بالا. اینو نمیشه ردش کرد ولی این بازی من واسه من یه چیزی بود که یکم به هم باور داد نسبت به اینا که اینا نه واقعا یه چیزی واسه شون داره یه اتفاقای میفته. و اینم داستانش اینجوره که بعد موقع هست مثلا یه تیمی میخواد پیشرفت کنه خب؟ میتونه خوب باشه، منطقه باید یه چیزایی اتفاق بیاده، شانس بیاره یه مختهی، بعد از اونجا اعتماد به نفس و مومنتوم بگیره بره بالا خب، این انگلیس هم تو جامعه جهانی اتفاق افتاد و از اون به بعد داره اونو استفاده میکنه و خوب دارن میرن جلو انصافه انگلیس به یه نقطه عطف دیگه احتیاج داره آره. و اونم رفتن جردن هندرسون و مطنی یه هافپک وسط خوبه واقعاً متاسفانه مشکلش اینه که الان اکثر هافکاشون مثلا مدیسون که تو انگلیس هم صحبت کردیم توی لیگ انگلیس اکثراً مال تیمای وسط جدولن دیگه داستان دوره لامپارد ها و جرارد ها و اینا دیگه نیستش یه خورده این اینه که الان خط هافک انگلیس کلیریه چون خط دفاعشون واقعا خوبه دروازمانشون هم اوکی دیگه سوتی موتی اینه دیوید جیمز فاجه و اینا ندارن خط حملهشون هم که واقعا یکی از بهترین خط حملهای تیم‌های اروپاییه من می‌بینم مثلا به غیر از مثلا فرانسه میشه گفت بهترین خط هجومی تیم اروپایی من فکر کنم مثلا اگه توی سیتی به این فیل فودن یه خورده فضا داده بشه میتونه خیلی آففایک وسط خوب باشه پوستی که تو سیتی هست اون وینگر واقعا بهترین بازیکن سیتی معمولا اونجا نیره آقا وین نیستش هافک وسطه همین اه. آقای فابیان دلفم هافک که گردیلا میذاره. یعنی دفاع پوست چا. ده مزوره ته مثلاً فیلفو نه هشت، هشت یا شش. هش. آخه خیلی جستش کوچیکه برای پوستش من فکر کردم وینگره. خب وراتی راتیان جستش کوچیکه و دلیل میشه. ور آخه اون دور از درگیری هاست بیشتر. یا اگه درگیری هست میاد صاف اخراج میشه میری بیرون. <تصفح> <تصفح> خیلی چیز. کاریان میکنه. آره. حال نکردم که ام کرده اینا. یه کرده. همین آخرین. قبل جام بود دیگه آهان سر اون که نرفت انجام داد. آره نه سر اون که نرفتن نبود. این بعد خیلی داشت بدبازی می‌کرد. بعد وقتی آه. که تعویض شد به جای اینکه مثلا شخصیت قوی و بده اومد گریه کرد و حتی بازی پی اس جی با کجا بود؟, با... بود؟ فسته پی چمپیونز لیگ رئال. رئال بود این یا, یا تعویض شد یا اخراج شد. فکر اخراج شد. که باز بعد اون قضیه هم دوش ها زمین میره پیرون باز دواره گریه میکرد من اصلا دوست ندارم گریه بکنه بازی کنه باز صف و شد شد دیگه نه این ذهنیتش مشکل داره اینو بهش ایراد میگیرم یکی از دلالی هم که ایتالیا نتونست تو این چند سال بره مرحله بعد ازش ذهنی اینم این بود که این مثلا رهبرشون عملا این بود و خطا آره. و این نمیتونست بارتیمو به دوش بکشه اصلا محسن دیگه گل سرسبد داستان این بود که جلوی اسپانیا دیدی مثلا ایسکو نابودش کرد چند ثانیه لایی انداز قشنگ اتوبان زد اصلا اون بازی له کرد دیگه قشنگ یه تنه کل هافکوی ایتالیا رو نه فقط اینو ولی خب الان انگلیس داره خوب پیش میره من راضیم بعد فکر کنم از سال 98 که من طرفدار انگلستان شدم تا الان حالا جدا از اون نسل طلایی 2004 2006 که اون افرزه های تاریخی واسش اتفاق افتاد به این نسل میشه امید داشت و اینکه یه سری اون های زیر 20 سال، زیر 19 سال اینا رفتن قهرمان شدن، حتی هنوز تزریق نشودن. تزریق نشون. دو سه تاشون یکیشون من... لیورپول تزریق شده. یکی دو تا سیتی رفتن بعد ام. چند تا تو تیمای پایین جدول هستن، اینا بتونن تزریق بشن و رو تو پرمیر لیگ نشون بدن و افت نکنن. اینا میتونن واقعا بسازن آینده رو چیزی که مشخصه توی انگلیسی اینه که این بازیکن سازیشون رو بهتر کردن نسبت به گذشته آکادمیا چون FA یه سری قوانین سخت‌تر گذاشته اینا خرج بیشتری مجبورن انجام بدن روی اونجا و حتما تیم جوانان باید داشته باشن که اون عادت قبلا هم داشتن ولی الان یه خورده بهتره یه بحثی بود که این اسپانیا اینا بیان تیم دومشون رو تو لیگ‌های دسته های پایینتر پخش بکنن که خب منتفی شد به خاطر تیمای پایین تر ایداد گرفتن گفتن این خراب میکنه داستان و اینا را نذاشتن اونو اگه میذاشتن به نظرم کامل میتونست انگلیس قشنگی تو لبل اسپانیا ها نظر بازی کن تجربه دادن بهش اه. یه خورده اون که الان ایزولند توی لیگای خودشون جوانان زیر 23 سال و پایین تر و اینا زیر 21 اون یه خورده به نظرم جلوگیری میکنه از این که اینا اون با اون جو واقعی فوتبال بزرگ سالات رو ها رو بشن حالا باید ببینیم دیگه اینا چ کی... حالا اون داستان شیخ منصور که گفتیم یه بارم 400 منیوم پوند مثلا سال اومده خرج کرده خب اینا بالا خر تیم رو تاثیر خود ذ میده الان تو مخصوصا دو تا تیم سیتی و چلزی اینا جوانانشون رو به ایچک میکنی باز کنایی که خوبن که اکثرشون هم همین می بینیم مثلا به اندازه خیلی تیم دارن پول می گیرن خیلی باز کنه خوبیه اینا ای مقصدن چلسی ایده رو از دورتمون گرفت دورتمون که با کلوب اومد فینال اینا اومدن مدل اقتصادی دورتمون رو کپی کردن و حاصلش الان شده سی و چند تا بازیکن کنه که تو اروپا پخش دارن که اکثرشون هم به تیم چلسی نمیرسن مثلا هم میرسن به نیمکت چلسی نه تو استارتاپ اون ترکیب اصلی چلسی و همین باعث شده که البته درآمد خوبی دارن پاش اون درآمد دو این قرار کنسل بشه دیگه یعنی قراره خود, خود می می یوفا میخواد جلوی آره. این همه بازیکن قرضی رو بگیره بگیر نهایت 15 تا آره. میتونه باشه بکنه. آره این خیلی مسخره است قشنگ یه تیم تو اروپا پخش دارن نمیشه که این چه چیزی اکثرشون تو هلندن حالا نمیدونم این داستانی که الان یه سری تیم‌ها میرن یه تیم کوچیکه یه کشور دیگه میخرن خب بعد بازیکناشو میفرستن اونجا صن خود چلسی قراردادی بسته یه تیمی هست فکر کنم ویتس آر نهم. اه هم یه همچین چیزی باز کردن رو میفرسته اونجا بازی میکنن تیمه نزدیک به قهرمان لیگ هلندشه یه سال دوم شد یعنی آخره پسنم فکر کنم پی اس پی بود اونم جاشو گرفت یعنی خیلی مسخ خیلی هم زشته برای اون کشوری که هستش تیم ذخیره های یک کشور دیگه اومده مثلا تو تیم ما اینا هم کلان یه سال باغل هم هست. آره. میاد قهر میشه خب به چه جالبی نداره خب, خب. سیتی داره این سیستم مثلا آره. نی... نیویورک سیتی رو رفت خرید یا یه تیم تو اس تو اوناست اونا اونها چیزشون اونا جیرونا ها... آره, آره. جیرونا چند درصدش که مال همون شیخ نه ایناست کمپانی اوناست یه مقدارش مال برادر گواردیولا که ایجنت هم هست مال که تیمه و خیلی از بازیکن‌هاش هم همون ایجنتشون هم اینه و خود پپ هم نمی‌دونم یه درصدی فکر کنم اونجا چیز داره یعنی به هم رب دارن اینا بعد اینا تو استرالیا یه دونه ملبورن سیتی دارن توی آمریکا نیویورک سیتی رو دارن تو برزیل یه دونه تیم دارن توی جیدن من چنیدم که تو چین میخوان یه دونه تیم بخرن. تو شنژن می‌خرن تو ژاپن یه دونه تیم دارن یعنی قشنگ کل فقط تو ایران تیم ندارن نه یعنی همه جا تیم دارن والا نمیدونم چی میخواد بشه آخرش یه محدودیت همه برای این ها بذارن اتا قار راهاش کنه نمیشه اینا رو کرد مثلا توی یه قاره باشه یوفا هم عملا درد سر درست میکنه من اینجوشتی ما نمیشن. نمیشه کاری کرد ولی وقتی خب میره قاره جهانی داره چیز میکنه آره داوید ویارو خریده بودن نه no. بعد برای تیم استرالیاییشون خب دیدن خیلی خوبه فرمش فرستادم تو تیم آمریکایی آره. رفت اینجا از اونجا بازی کرد اصلا چیز عجیبی بود حالا ایران رو که گفتی بریم اصلا سراغ ایران خوب ایران بازیش با بولیوی اول خوی خورده ذهن مخاطب رو آماده کردیم با این صدای اون آهنگه والا و اینا یکی هر نقطه داره این بازی یکی اینکه دوباره کیروش ورداش این سردار آزمون رو دعوت کرد خیلی راست. خیلی اصن تصمیم خفتاوره به نظرم که اگه طرف خدافیسی کرده خودش هم قانون خودش رو له کرد. چون ادعاش می‌شد که من بازی سالاری نکردم ولی نمیدونم به طرز عجیبی پشت سردار آزمونن خیلی اصن خیلی حمایت از این بازیکن واسه من عجیبه. خورده غیر عادیه. آره یه خورده غیر عادیه. آره، یه داستان دیگه بوشه. یه داستان دیگه این بازی داشت. بلاخره حضور خانمات تو ورزشگاه بود که البته حضورشون گزینشی بود و این که الان داتتان تهران گفته چون خانمات میرن این بازیکنهای نیمه برهنه رو میبینن تحریک میشن که من فکر گفتم توی اپیزود دو یا سه بود که اگه ما قراره این قضیه رو به این دلیل ببندیم واقعا کار احمقانه ایه اگه اون خانمات ببینه با دیدن زانویت مثلا آخه من یه چیزی بگم من ببین اون با یکی داشتم توضیح دارم ببین؟ الان مثلا آسینکوتا خب حتی الان الان میگم شاید 20 سال پیش مشکل داشت پوشیدنش. ولی الان آسینکوتا میشه رفت تو خیابون و کسی کاری باید داره خب اون که هیچ خب تو این زانو چند درصد میشه خب سطح چیزش خوب. اون یه دونه گولر بود ماله مجارستان شلوار می پوشید آره آره اونو, اونو یکی اکش روی انداخته بود و تو تویدر می گفت هجاب ایدئال مردم برای بازید حتی رنه هیگویتا هم شلوار می پوشید دیگه آره هیگویتای یه دونه, بازی یه دونه بود. این بود چه گفتی گه هیگویتا بود یه دونه واکی وایاشی اونم با شلوار واکی هم بگفت بود الان صدا بردارمون یه نکته ای رو اشاره گفته که یه بار دیگه میگیرونو گفته در صورتی که دادستان حق تهدید نداره اگه تو قانون هست تقاضای پیگرد کنه اگه نیست پس چی میگه خب این بخصیه دیگه میگم اگه ما قراره به خاطر این بیاییم ممنوع کنیم ما بعد برای خود اون قشر اون پنجاه درصد قشر معنیس جامعه شعور قائل بشیم که اگه میبینه تحریک میشه خودش نیاد خوب مگه نمیگم مثلا مر خانمه سرش میگن اگه مردا با دیدن ما تحریک میشن خب نگاه نکنن خب اوکی تو هم ما برای شور قائلیم اگه حسپگاه تحریک میشی خودت نیا این که مثلا بیان یه نهاد حکومتی بخواد بیاد جلوی حضور پنجاه درصد جامعه رو بگیره این اصلا جالب نیستش حالا یه توییت جالبی دیدم میگفتش که چی جوریه که مثلا وقتی مردای این لباسش مشکل داره زنها نباید برن استادیوم ولی وقتی که زنها مثلا بازی دارن حالا تو مختلف باز باید اوا لباس بپوشن که آره. این هم خب خودش یه داستانیه این اصلا خیلی چیزا مشکل داره. مشکل داره خود قانونی هم که کجه اونم جانه میکنن که میکنن دیگه تهش چه انتظاری انتظار ناصر اجازی بود مم. که یکی باش آره. مصاحبه کرد پرسید که چرا فوتبالمون اینطوریه آقای اجازی گفتش که کجامون درسته <تصفيق> که پتباله ما بلیگم این اصلا جالب نیست حالا آره مثلا این که دوباره میخوان جلوش رو بگیرن ولی خب این تحدیدهایی که فیفا داره میکنه شوخی بردار نیست و احتمالا توی نرمش گز... قهرمانه رو... نه, نه نه نه نه همین داستان گذینشی میرن جلو ام. چون با همین هم میشه اونجا رو دهنش رو بست همینجا رو آره. خیلی اتفاق خاصی ه ولی دیگه یه سیاره افتاد ربطی نرش میدازم این حالا بریم سارخ یابانی نه نه نه این اسپانی انگریز نه نه من اسپانیا ها را حد اسپانیا اسپانی متاسفانه توی سالای اخیر همیشه خوب بوده قشنگ سر تورنمنت‌های های اتفاقی میفته خراب میشه داستان اینا توی مثلا این دو سال قبل از جام هم واقعا بهترین تیم اسپانیا بود تو بیشتر مقاطه امنل ولی خب سر بازی ملی اون داستان ها پیش اومد و مربیشون اونطوری شد حالا این سری هم که جوی کرواسی هم همین داستان رو داشتن که خیلی موقعیت میدادن به حریف اوای بازی مونتا کرواسی تو پا رو زد بیرون بعدش شش خورد <تصفح> مال انگلیس هم همین جوری شد منتات یه, خ... یه خورده خیلی مهربون نبود اون داستان چی میگن خدای فوتبال با این هم از اون یکی از اون شبا بود داستان که اصلا هرچی میزدن نمیرفت آخرش خیلی دیر برگشتن به بازی یه سحنه بودش که پنالتی بود اون جوردن فیک برده باید اخراج میشد اگه گذاشت به این آره نه حالا به اون میرسی خب اون وقت اخراج میشد اونم میتونست داستان رو عوض بکنه هرچن انگلیش تیمش خوب بود ولی اسپانیا هم اون قضیه بد نبود که اون شب بازنده باشه بعد از روم که ن بودی نه خب ترسیدمی خوردم یه <أخده> 15 سالی بود تو خونه بازی رسمی نواخته بود آره حالا برعکس شاید قبلش هم اصفهانی همین رکورد راجب به انگلیس چیکونده بود اینا هم فکر کنم یه حدود ده سال بود تو خونه نواخته بودم بازی رسمی بردن انگلیس اون بریم سراغ خیابانی بریم خیابانی اومد این صحبت رو کرد ببین حالا ما نداریم اصلا خیابانی تعطیل ترین آدم دنیا خب اوکی، یه نقد بهش وارده. اینکه شمایی که حتی در حتی این یه جمله هم نمیتونی انگلیسی حرف بزنی، چه جوری مترجم کتاب گواردیولایی این کتاب رو بعد بخونی؟ حرف خب... گرونه. گر اصلا من واقعا نمیفهمم که اگه تو مترجمی این چی بود گفتی؟ اگه این چی بود گفتی، چجوری ترجمه کردی؟ و کی واسه ترجمه کردی؟ من میگم یه ایده‌ای دارم از اونجایی که اینا هیچ وقت احترامی برای کپی رایت ندارن تو همه تورنمنت‌ها دارن میدوزن یکی بیاد این پی دی ای درست کنه <تصفح> بس پخش کنه یعنی چی تو ایران یعنی رایت را هی چی، هیچی رایت الان مثلا تو اندونزی که مسابقات آسیایی بود یا الان این المپیک جوانان نمیدونم اگه دیدی یا نه باز اون تصویرشو خبرنگار فرستادن آنلاین از اسکایپ داره تصویر میگیره مسابقات رو زنده پخش میکنه حالا اون اندونزیایی‌ها ساری گرفتن داستان اینا رو جمعش کردن ولی آرژانتینیا بعد نمی‌دونستان نمیدونستن همچی چیزی هست از اینا بعد اینا راحت گرفته بودن مثلا مسابقه جودو مثلا بخش کرده آره. بودن یا چیزای دیگه تو ماجرای خیابانی من یه توییت خوندم جالب بود خوب میگفتن که اوکی خیابانی الان حرف زده اه. اصلا دوست دارید اعدامش کنید خب ولی وقتی یه آدم خارجی میاد ایران و میخواد فارسی حرف بزنه و میگه که مثلا اینجا کباب کجا و شماها زوق میکنید این همین قضیه واسه خیابانی هم میتونه صادق باشه که این خب زبون مادریش نیستش یه نکته ریز هست اینجا اونم اینه که فارسی زبون بین المللی نیست خب. و اون یارو از روی علاقه داره این کار میکنه ولی انگلیسی الان به عنوان یه میار بین المللی داره استفاده میشه و وقتی هم که یارو این پست کار رو داره که گزارش کرده طبیعتاً باید مراقب خارجی وقتی میخواد به رو بخونه. ممیر مورد داره میره ویکی‌پدیای فارسی میخونه بعد دولا اب امیر سازنده‌ اون ورزشگاهه میشه اگه ویکی‌پدیا رو خودشه فارسی و شو مقایسه کنین می‌بینین خیلی فرگاره مثلا از نظر محتوایی واقعا درایه اصلا فوتبالی که دیگه هیچی حالا استناد می‌کنم به همونا بعد اکثر اون آمارهایی هم که علیفر فراز از ویکی‌پدیا میگه فقط بازی‌های لیگه جام حذفی و اروپایی و این تورنمنت‌های دیگه توش نیست سر همینی آمارش ناقصه به این باز می حالا مثلا فارسی بین الملی نیست یا انگلیسیمهار اینا اوکی قبول ولی مثلا یه کسایی مثل مورینیو مهم. مثل امری و چند نفر دیگه الان دارن تو انگلستان مربیگری میکنن من مثلا مصاحبه های بعد بازیشی کنفرانس می ها رو نگاه میکنم از انگلیسی هفتاده طرف خندت میگیره مثلا اونا هم حتی با اینکه دارن تو اون کشور کار میکنن چند ساله بالاخره دارن کشور مختلف جابجا جا میشن اونا هم هنوز نمیتونن خوب صحبت کنن و اینکه بیایم ما خیابانی رو فقط به این دلیل بکوبیم جالب نیست اما خیابانی قدم که میزنه به ازای هر قدمی که میزنه یک دلیل برای کوبیدن بهت میده و اگه میخواد مثلا طرف خود به سلابه بکشید دلایل دیگه هم هستن که صرفاً گفته مثلا آره اشتباه فرساد دیگه مثلا یور تیم این ورلد کپ نو خب اوکی دلیل دیگه هم هست این کار حالا اون بحث شفیو که گفتیم اینم اومده برگشته جمله گفته گفته میخواید منم بمیرم از من قهرمان بسازید یارو یکی توییت کرده بود که آقا چه قهرمان میخواد بگیم مثلا این استاد زبان بود چی میخواد بگیم راجبی؟ بازی ملی دیگه مهم بود. بالا وضعیت تیمار رو یه خورده میخواستم کنم هم چیم... تیم میخوا هم مورد عراق این اینا صحبت کنی ای که برزیل یا مثلا آرژانتین و با ها بازی کنن آلمان و مثلا که جهیدن. آلمان که گل نمیزنهورره آلمان هم بدترین عجه تاریخ ش گرفت توی سال میلادی مثلا اینقدر باخت نداشتننیش وقت بعد یه مورد عجیب این بود که مثلا اونسانر رو موقعی که توی سیتی میدرخشید دعوت نمیکرد. بعدن که خراب کرده بود آورده بود دعوتش کرده بود تو تیم ملی خب این یه خورده جای سوال داشت الان حتی کی بود توی آلمان اولیور بیرهوف بود نه کی بود از همین این تیپ ماتیوس لوتان ماتیوس بود اینه که گیر میدن و میگو من متحجبم که چرا هنوز یو لو مربی آلمان مونده <متلا> آره یه سریشون بعد حالا آره جالبیشون جسون بحث نجات پراسی اوزیل و اینا که چیز شده بود الان اوزیل هم نیست می‌بینی هنوز تیم ملیشون همونه و جالب آقای هوینش که این همه ادعاش میشه خیلی آلمانیه چرا به توماس مولر هیچی نمیگه که خیلی بدتر از اون داره بازی میکنه و تو تیم ملی هست ولیشون بازی کنه با مونیخه هیچ وقت از این انتقاداتی نمیگه مولر نماد آلمان الان بخوای حساب کنی اخی نمادیه که تموم شده دیگه مثلا برزیلیایی که مثلا سی سالش میشه تموم میشن اینم فکر کنم برزیلیه درون داره مم. یه دونه خیلی خوب بود آره قبلا خیلی خوب بود الان یه خورده ول فکر کنم دو سالی هست آفه کلا داستانش تقریبا از یورو 2016 که اونجا گنج زدن شروع شد باشگاهیشم تاثیر گذاشت دیگه خراب شد آه. قبلش بازم خوب بود دیگه فرانسه هم که فرانسه هم یه دو تا با کرد آره یه دونم دارم... امباپه اومد نجاتشون داد آره یه دارم بازی بردن آلمانو بردن نگید. آره, آره, آره, آره گریزمن دو تا گل زد من چون نگاه نمی‌کردم من تو بازی ملی این سری کم نگاه کردم همین بازی چون با همام هم درگیر بود این بازی برزیل آژانتین این و مینا بود بازیش آلمان و فرانسه دهورب شروع شد تازه همون 40 45 دقیقه بیشتر نتونستم ببینم از بازی آلمان و فرانسه ولی به نظرم آلمان یه تکونی به خودش داده بود هرچند کافی نیست حتی خب اینم قرارمان جهان و تیمش قویه این آلمان یه بازیکن خوب داره چش همو گرفته کی؟ این... کیمیچ؟ نه برانت این تو جام جهانی هم جای لیرویسان دعوت شده بود آن جولیان برانت؟ آره, آره. اون یه چیز جالبی بگم راجبون اینو لیورپول جلوتر از سلام میخواست بخاره خب؟ لیورپول لیورپورزنه منطقه از پارسال تا الان خیلی فرم جالبی نداشته اینو اگه لیورپول خریده بود هیچ اتفاقی برای پارسالشون نمیافتاد کلا یه صحنه دیگه دیگه داشت یورگن کلوپ و لیورپول جهانی اومد تو دو سه تا شوت خوب زد من اصلا این مثلا این یه چیز جوون چی میگن رو بازی تاثیر زیاد نمیذاره اه... رو یادم رفت اینکه زنده بازی میکنه جنب و جوش داره انگیزه داره روحیه داره ولی خب خیلی یار ها... سرزنده نیستن خیلی ها الان تو این روزای فوتبال میبینیم که خیلی خوش کسری یا بازی میکنن. یه بازیکن این شکلی وقتی میاد مثل این مثلا حالا این, این که دو تا بازی ازش دیدم اونم دقایق کم ولی یکی که تو فوتبال سرزندگی داشته باشه مثل کوین دی مثل ایدن ادن هازارد اصلاً دیدن فوتبالش آدمو جوان میکنه تو اروپا کمتر این داستان داره تولید میشه چون بازیکناشون خیلی ماشینی تر دارن زندگی میکنن ولی مثلا کشورهای آمریکای جنوبی خورده فضای خیابون و اون داستان تخیل با اشیاء امه. که مثلا دیری میزنن تو ذهنشون و اینا اونجوری باز خودشون حریف میسازن تو اروپا خیلی آکادمیکه که خیلی خوش که این خلاقیت ها رو ندارن توش جمله این بازیکنای کنهای سرزنده آمریکای جنوبی که الان داره خوبم بازی میکنه لوکاس توریرای آرسناله امه. که هم وقتی اومد دیگه جاش گرفت تاکی فیکس شد و اینا خیلی آرسنال این یه جورایی هم بازیکن توپگیره هم یه جورایی نقش کازورلا رو داره بازی میکنه برای این تیم تو تیم ملی هم نقش کلیدی داره خیلی خیلی تعریف کردن از گازیدیست که اومد قبل از جامعه جهانی قردش رو بست اگه میمون بره بعد خیلی سخت میشد آه. بین این همه مشتری که دنبال همچون پستی میگردن سخت بود ب ایران فکر کنم بازی ملی بعدیش با ونزوئلا بازی جالبی نیست. یادم یه سیرام بگم راجع به این آمریکای یا اینا وقتی میان با تیمای مثل ما یا ژاپن و کره اینا بازی میکنن طبیعتا تو اون بازی نمیان خودشون رو محک بزنن چون <تصفيق> میدونن ما ضعیفی. یه ترکیبی است. تیم دومشون با تیم جوون بازی میدن جولای ما خب مگه اینکه مثلا کار خراب بشه مثلا ستاره‌هاشون بفرسن تو زمین که بازی برگردونه. که جلوه اروگوه جلوه کورو جاپن هم همجری شد باختشون داد ولی ما میدونیم که خب اون بود خیلی تیمه بهتری از این داستان ایرانم اینا فکر میکنن که مثلا شما اصلا دیگه لحظه در نظر در بگیر این بازی که من فکر کنم نصف بازی ایران و بولیویو دیدم اگه این بولیوی بره جلوه بریزیل بازی کنه چند تا میخوره؟ خیلی ولی میبینیم که اینا بعضا آرژانتین هم تو زمین خودشون چند سال پویستان هم بردن یه بازی شش زده بودن دو هزار و چهارده بود یا اواخر دو هزار و سیزده یکی این دوتا آرژانتین یا برزیل رفته بود بولیوی بازی کنه بعد میگفتن که این ارتفاع از سطح دریای بولیوی انقدر بالاست که اصلا بازی دیگه نمیتونن اینجا اصلا نفس ندارم فکر کنم چیز بود. برزیل بود یه قانونی هست اندرسون بازیکن منچستر بود این وسط بازی فوتبالش تموم شد رفت اون بر بهش ماسه اکسیژن وصل کردن یا مارسلو خلاص کرده بود آره ببین این توی فیفا قانونی هست میگن که زمین استاندارد فیفا یکی از شرایطش اینه که بالای 1.5 کیلومتر بالاتر از سطح دریا نبات باشه خب بعد توی بولیوی هیچ نقطه ای وجود نداره که همه آره. شرایطی داشته باشه فکر کنم یه کشور دیگه هم هست خیلی نزدیک به اینه مثلا 80 80 درصدش تو هم آمریکا جنوبی که تو قسمت رشته کوه آند و آره خب سر همین اینو رو دست فیفا مونده چکار کنن اونم شر شده برای تیمای دیگه حتی همون یه بازیه همه امه. اونجا میتونن خراب کنن هیچ مشکلی ندارن من میکنه. از اون به بعد هیچ خبری از اون اندرسون یونایتد نشنیدم. از دیگه مثلا لیگ چین اینا بازی می‌کنه اونجا بره برزیلیا خوب پولی درمیارن من بابا فهمیدم خیلی من پول بهش بدم یعنی بازیکن نبود ببین اونجا الان به بازیکنای معمولی به اندازه مسی رونالدو پول میدن اون لاوتسی مثلا بازیکن خاصی هم نبودی بازیکن معمولی بود. اونجا فکر کنم جزو 5 بازی کنه اول دنیا بود پول میگرفت. خیلی خب پادکست یه هفته تموم شد. از همه همراه ها تشکر میکنیم از صدا بردار خوبم آقای میلاد پاشایی از اسپانسرمون علی جمادی و کسایی که پادکست رو به دوستاشون معرفی می کنن مهمانه برنامه که نداشتیم یه موزی خود راحت تر بودیم خیلی حرف می و و رو به خودمون از پاریم که یه موزیک خوبم بشنفیم خداحافظ Take me back to the stars